اینه فقای کسی خاص صحبت بکنه اینو بچرخونید کسی که دلش یکی و خیلی سخت میشه. میگه کوچیکر کوچیکر بشرفشه. فایلش رو بزنید. اگه تو یکی از اینا خلاصش. دوتاش هم هست یالو. خب دوستان از طرازم اوکی. ترانلوگ رو ی همه میشناسن اطمینانن و کسی هست که از پنجر اثار تا شرکت کرده باشه؟ احیانه؟ یا اصلا اوه احسن... یه مونطور، خودتا کلا میرون بقیه هده اقا پنجر اثار رو پنج شرکت لسطال. کردن دیگه عرضم به که روالی که تا الان بوده رو یه خودتون دیدید با چشم خودتون و هر چی بوده قدیم هم تقریبا همین بوده یعنی از سال 1382 شاخار تا الان که 1400 دویم چیزی که تشکیل شده تقریبا همین بوده این ما معمولا یه دو ساعت کنار هم جمع می شدیم اگر ارائه‌ای بوده ارائه‌ای انجام می شده که معمولا سعی شده ارائه‌ای باشد ولی بعضی جرسات هم نبوده و انجام شده و اما صرفا دور همیه فلسفه اولیهش هم که تیم اولیه توی سایت اولیه درش کرده بودن این بوده که آقا یه مشت که خسته لیلونکسی میخواستن هفته یه بار دو هفته یه بار یک ماه یک بار یه چند ساعت از پشت کامپیوترشون بلند بشن برن کنار هم بشینن و با هم یه صحبت کنن دیگه از اون فضای پشت کامپیوتری دور بشن این فلسفه اولیش بوده و تا یه جایی هم خط قرمزمون بوده یعنی اگر یه زمانی دوستی گفته آه چرا میتینگ رو آنلاین برگزار نمی‌کنید؟ به استناد این گفتیم که آقا چون که ما می‌خوایم دو سال از پشت کامپیوتر بلند بشیم، بریم کنار هم بشینیم. اگه قرار بود که پشت مانیتور بشینیم که هزار تا ویدیو یوتیوب و سمینار آنلاین و چیزهای دیگه هستش که بخوایم استفاده کنیم. اصل ترانلوگ من خودم بر اساس اون چیزی که دیدم روی اون دوره همیشه و اون مشارکت و کانتریبیوتی که بچه‌ها نتورکینگی که هستش که بچه‌ها با هم یه آشنا میشن و محسلش هم بعد از سال‌ها همون شبکه‌ای هستش که میونه یعنی شما الان طوری شده همین رو بگیری از اون کسایی که از اولین جرأسات بر شرکت میکنن تو الان هر نقطه ای رو دنیا شما دست بذارید حتی تو چین هم شما دست بذارید یه نفر تهران‌دایی اونجا پیدا میکنید یه نتورک خیلی قوی شده که میتونی باهاشون در تماس باشی اگه یا یا بشناسیشون این چیزی بوده که تا الان بوده من خودم ورودم مال سال هشتاد و بوده به تهرانداک یعنی دو سال بعد از اینکه تهرانداک تشکیل شده بوده من تازه اولین جلسه هم بودم و معمولاً بعد از اولین جلسه تا, اه اه تا یه حدی زیادی بودم یعنی فکرم شاید صد جلسه رو خودم شرکت کردم نه. که یه زمانی سال ۸۸۸ اینا اون تیم اولیه کشیدن کنار که گفتن که آقا ما میریم کنار چون یه یه گروهی شده بودن ده 20 نفر اینا و خودشون حالا میتینگ هاشون توی کافه یه چیزی بروازارو میکردن شد مختی یه بار اینا گفتن آقا بذاریت جوونا بیان و اینطور شد که جرس ها تقریبا یه بازه ی چند ماهیهی برگزار نشد یه من خودم دیدم اینطوریه دوباره شروع کردم سال 87 اینا فکر کنم اداره تاریخش ذایق یادم نیست. گفتم که به شروع کنیم جراسات رو. که اولش رسیدیم به یه شرکتی بالای پارکی لاله بود. دو سه جراسه رفتیم اونجا. بعد بعد دو سه جراسه در قف کردن یه رام ندادن با اینکه خودشون گفته بودن بیایید. یه دو سه ما رفتیم پارکی توسن. نه تو اسان که توی زفن، برهن. توی زرداد. نه، اصلاً اینم اصلاً یادم نیست. برای یه شرکت غیر معروف خودشون گفته بودن بیای. دو سه جوری اصلاً رفتیم. در 12 نفر اینا بیشتر هم نبودیم. در اصل لایک صرفاً جهت اطلاع تا قبل از این اواخر من یادم نمیاد یه بیشتر از پنج و 60 نفر بوده باشه. ولی جدیاً ما ایونت که میذاریم بیشتر از 100 نفر داریم. و مشکلی کم بوده ظرفیتم مواجه اون موقع خود تعدادم کم بود 20 نفر بودیم همون شرکتی که رامو نداد گرفتیم پارکی لاره تو حالا چیغه دوره هم جمع شدیم دو سه جلسه اونطوری برگزار کردیم بعدش یه افتاد رو کردیم یعنی ما نمیدونم ن... میرفتیم نظام سنفی میرفتیم سازمان فناوری اطلاعات فرنگساری آی تی خیلی جا رفتیم و برگزار کردیم و اون موقع کارمون رو افتاد زیاد مشکلی اونطوری نداشتین حالا این اواخر یه زاویه و جای دیگه چون نتورکمون قوی شده یه هر رو بچه‌ها حالا مثلا چند جلسه بچو شیپورم مثلا رفتیم. بابا که بچه‌ها خودمون اونجا حمااین کردیم در اصل. تقریبا هر ج... الان مثلا بچا با علی بابا دارن صحبت می که جاهاشو در اختیار قرار بده. همه اینا به واسطه‌مون نتورکی که تهران لوق قدیمی نشه. حالا صحبت کلی من اینه که این روالی بوده که از 84 که منم نبودم برقرار بوده ما به رسم اون پیشینیان همینطوری رفتیم جلو. حالا میتونی بگی آقا الان 1402 یه کسی در دقدقه نصب لینوچس نداره دیگه که مثلا شما بخواید لینوچس روسی سامرش نصب کنید گستره استفاده از نرفت و آزاد خیلی زیاد شده دیگه طرف ممکنه اندروید دیولوپر باشه فرانت کار باشه دیتا ویست داره کار میکنه هر کنون اینا تخصصی شده شما میگی ممکن این حرف الان پیش بیا که آقا رواله برگزاری رو باید تغییراتی توش بدیم و اصلا اون ساختار قدیمی جوابی نیاز هایی که توی 1400 هستیم نیست و ساختار رو پولا باید کنیم الان مثلا ما پایتون مثلا درخواست داره که یا اون تهران درخواست داره که جراساتش رو میگه ما خودم کاملیتی بزرگی هستیم دوست داریم که مثلا یکی پیشنهاداتشون این بود که مثلا دو هفته یک بار مثلا تهران لایک باشه تهران پایک باشه تهران لایک باشه باشهشون این اشتراکی که بین این دو تا کامیونتی هم وجود داره خیلی زیاده دو هفته یه بار باشه معامل هم دو بچه دو هم جمع میشن اضافه اینکه یه تکراری هم نمیشه مثلا دو هفته لاگه دو هفته پاگه من خودم یکی از انتقاده دارم که دارم این که پاگ تکلیفش مشخصه یا لاک کت که به احداد برگزار میکنه مربوط به بچه های اندرویدیه بچه های که دیجیتال که کار میکنم. جلسات خودشون دارن و که فرانت نت انفارم که اون جلسات خودشون دارن. من که یکی از گیرهای اصلیم روی نحوه برگزاری فعالیت هر آن اینه یعنی که وقتی میگیم لینووس یوزرز گروپ دیگه نمیدونی منظورم کجای لینوچسی. یعنی طرف ما چون فلسفه ما رو نه نفس بوده ما اینو میگیم که ما دور کاربران لینوچسیم. یعنی واقعاً داریم راجع به چی درم صحبت میکنیم. آیا یا قرار ارائه بدیم؟ بعد دقیقا خود خود سیستامل لینوکس باشه یا نه میتونه دیتابیس باشه میتونه گو باشه میتونه پایتون باشه تا چه حد میتونه این باز باشه و اصلا روال برگزاری جلسات به چه نه باشه آیا اصلا میتینگ های دو ساعته باشه کلن نت... اصلا ارائه ما نداشته باشیم و صرفا نتورکینگ باشی که من خودم با این قضیه بیشتر حال میکنم دو ساعت کنار هم جمع این, این نظرات منه حالا امروز جمع شدیم که راجبه از الان به بعد تهرانلاکی صحبت کنیم هر کسی ممکنه ایده خاص خود خودشو داشته باشه یا فیدباک هایی یا کسایی گرفته باشه و به خود الان منتقل بکنه الان وقتشه که راجب این قضیه صحبت بکنیم خواهشم برای اینکه چیز نشه هم هم هم نشه دونه دونه مثلا دستانو میبریم بالا و صحبت بکنیم هر کنو به نوبت که حرف تو حرف نشه من حرفی ندارم بالا من فقط تو دستتو بالا صحبت کنیم چش هدف رو باید مشخص کنیم خب خیلی چیزا تغییر کرده از سال 84 تا الان مثلا اون دو سالی که کرونا خیلی اذیت میکرد ما میتونستیم آنلاین برگزار کنیم حالا باز تو آنلاین هم ما میتونیم نتورک سازی کنیم باید اول ببینیم هدفی که می خوایم هدفمون از ادامه لاک چیه چه هدفی هممون داریم من به نظرم این نتورکینگ خیلی خوبه و خیلی کارآمده در کنارش نال شرینگ خیلی خوبه مثلا من خودم یه دونه از لایک رفتم به سره که چه دیجی کالاستش چه سال مثلا مدود انسیبل میگفتش بعد من گفتم انسیبل چیه بعد اونجا دیدم تازه مثلا چیز باحالی رفتم دنبالش یادم شاید مثلا اگر اون اتفاق نمی‌افتاد دو سال برا من طول می‌کشید آره ارائه خیلی تخصصین اولین جلسه لاگو محمد همین اردن بودش اینقدر رای تخصصی بودمون پششیم رفتیم آره واقعا اصل... نایید منفی کسی که دنبال اون حال و یه زمانی ما سال نمود و ای بودم خیلی این خیلی بیشتر بود این قلققامون زیاد شده گفتم ما یه قسمتیو توی جلسات در نظرنگیریم برای تازه‌کارا مثلا اون طرف ما درمون رو مثلا می‌خواد اینورست از اصلا مثلا می‌خواد پی اچ پی بلد نیست اصلا تازه باید اصلا من خود یه زاره ما تازه‌کارا خودم یه سری پیکسل زدم اونایی سوالی دارین مثلا بین مثلا 10 نفر واسه تقسیم که اگه سوالی داری می‌تونم کمکم یه ذره رابطه رو که یا جدید مثلا ما رو بیشتر بگیریم که اصلا قربت نکنم من خودم خودم خاطره بدی دارم من خودم ساعت 8:06 که وارد شدم وارد جمعی شدم که 20 نفر دارم. من بخل میکنم من اونجا مثل متراسک کشته بودم باخودم بدی این خطر که تو اون جمع هر روز کم نمیورد ولی من این رو داشتم که برم اونجا بشنم یه برات چند تا می فکر این اصلا چند تا اصلا نمیاد بعد یکمجا باهاشون آشنا بعد یه رفیق فریحه کل چیزی که من می‌بینم همه روحیا هم ندارن که بخوام چند جلسه مروت بکنن که بخوام تو یه جمعی اگه بخویم این شیوه رو انجام بدیم حتما با این باید این غازیه تازه واردها و کسایی که تازه مرغ داشته رو حتما خرید. بسیار عالی. اگه چیز بشه یه نفر درس بده بعدش صحبتشو به یه نقطه برسونید آره. سخت دو هم برون جابجا بکنید. دو تا آره، دو تا داشته باشین بعداً اینکه پیدا بکنیم که بیاد بخاطر همین میگم, میگم یه ساختار سفت و سخت نذاریم که الزامن لایک باید اینجوری باید حضوری باشه خب الان مثلا ماه دیگه هم سالگرد اعتراضه سال پیش دیگه مثلا حضوری رو احتمالا خیلی کنسل کننن نذارن حضوری دوره هم جمشیم پس اگر یه آپشن آنلاین داشته باشیم یا به نحوه دیگه اصلا تو پارت جمشیم اما سیزه که شما گفتید پس اینجوری حالا زاویه‌ای نباشه آره من مشکل با پارک که مثلا واقعا که میرفتم 20 نفر نفر الان آنلاین ایونت نفر پا و هر فاری که بریم میگیرند آره خب قضیه 88 پارک لاله بود دقیقا بو پارک مشکلون اینه وگرنه یا اگه خیلی کوچیک خونه هم دیگه یه آپشنال نمیتونین داشته باشید. در کل صحبت من همین بودش. حالا آره من من یه بدی دیگه می‌خوام بیشتر صحبت می‌کنم. خب باشه شما شما صحبت کن. من یه نیم ساعت فکر کنم من چند تا چیز تا الان پیش رسیدم اینه که ما یه چیزی داریم به اسم جشن انتشار این فکر کنم بیشتر شرکت می‌کنن تا جلسات هفتگی. ای. آیا اینجا خود لاک حساب میشه؟ نه ما تو خود جشن انتشار پس این جشن انتشار رو جز لایک حساب نمی‌کنیم؟ هنوز جانبه‌یه جلسه دیویس داشتیم آره پس اون, اون جشن انتشار ها پس جز چیز نیسته، جز نه مثلا نه، یه کاربران آن ایران هر کی دبیان داش می اومد گفتم من دوست دارم داشتم انتشار دبیان داش می اومد مثلا یه ظرفم پاپا رو تلفنی ارزم موضوعتون که من دو تا چیز وجود داره این که در مورد ارائه ها یه سری از ارائه ها خیلی خوبه یعنی مثلا کسی که مبتدیه کسی که یه پله به نظرم برگردیم قبل از ارائه ها مسان می‌خوام چه کار بکنیم؟ خط قرمزمون کجاست؟ نه نه من میخواستم اینو توضیح بدم دو... مثلا میخوام به اونجا برسم در مورد اینکه مثلا حالا سازی باشه، ارائه باشه، اینا من خب. می‌خوام خب یه سری از راهها من که دیدم مثلا خب خوبه یعنی مثلا چه کسی که مبتدی باشه تازه میخواد وارد چه می‌دونم فری سوفتور بشه، لینوکس بشه، اینا خوبه. یه سری از راهها که تخصصی یکی که تا اون کارو نکرده، نیومده، ندیده، نکرده این میشه. مثلا من خب توی یه سوالی که الان برای آدیش میگه خب ما توی الهامی جلسه میذاریم راجع به انسیبل میگیم صحبت بکنی خب طبعی از علاقه ای به انسیبل نشه را چه براستی داره خب خب این یه موضوعه یه موضوعم هستش اون میاد خب آه. پس این که کی... ارائه برایش براش حساب نه نه مثلا اون انیش باشه اوکی این اوکیه خب ما میگیم مثلا اونی خب هم, برای هم برای که میاد اونی, اونی که میاد مثلا من توی چیز شیراز دیدم یه بند خدایی اومد در مورد دامند درایون دیزاین صحبت کرد، به ارائه داشت. کل ارائه کپی شده بود از یک کتاب الکیوان. و این حتی چیزی هم که داشت مثلا میگفت ده درصد در خود کتابه نبود، یعنی بیشتر کسی که داشت گوش میداد و داشت گمراه میکرد. خود من الان که این این این دق... دقیقا اینجوریه یعنی میخوام بگم مثلا ما بگیم طرف دامین درایوین دیزاین؟ من لطه بودم باید. اینی که مثلا اگه میگه من ارائه تخصصی هم میدم فقط صرف هم برای شبکه سازی هم نمیم فقط میخوام بیام اونو یاد بگیرم چه میعار و متری که وجود داره که مثلا اون کسی که داره اینو رو پرزنت میکنه که این رو ارائه میده اوکی آره اوکی. نه. نه من گفتم یه بتونم رو برسونم یه بریک بدم. الان شوخی ولی دوکی الان اصلا اون لول نیستیم که خدویه اینا رو قبول کنیم. نه نه نه من که خدا یکی نه نه. من اجازه بدید این من یه درخواستی بکنم اجازه بدید صحبت یه نفر تموم بشه بعدا آره من دا نه اوکی من, من من, من اصلا بحثی نیست کسی ما بیاد مثلا بگه آقا این طرف اوکی بیاد پرزنت بکنه من بحثم اینه که آیا راهکاری برای این وجود داره چون من واقعا دامین درایو دیزاین مثلا چندین سال دارم کار میکنم اون بنده خدایی که داشت ارائه میداد من اولاً فهمیدم مثلا 50 60 درصد اون کسی که اون کسانی که اونجا نشسته بودن مثلا نشدن چه اتفاقی افتاده بعد کل ارائه یه کتابو آورده بودن مثلا از رو اون داشتم که یا مثلا مقایسه ویندوز لینوکس یه چیزی که فیدبکی که دارن ازش میگیرن اینه که همه مثلا ناراضی بودن چیزی که وجود داره مثلا نیست که کسی بیاد اینو اعتبار سنجی بکنه آقا این بیا ارائه بده حتماً گفتن مثلا راهکاری هم میشه ارائه داد که این بشه یه بحثی دیگه هم داشتم در مورد جا که اونو خودم یعنی هم اسپانسر شدن هم برای ضرفرف جا مثلا من خودم میخواستم صحبت بکنم که آره مثلا تاصد نفر میتونم مثلا همین الان ساپورت بکنم دانشگاه... نه توی محل شرکت هر خصوصی آره اه... حتی ا برای اسپانسر شدن هم گفتم که مثلا میشه توی یک اه... راها یا دو هفته دو یه بار که برگزار میشه مثلا به عنوان اسپانسر شدن اسپانسر ما در حد پذیرایی نه پذیرایی مثلا ما میتونیم پکای دیگی هم مثلا در نظر بگیریم صاحب نه حالا میگه می خواد حالا امروز حساب روشته شما هم هستیم در مورد پذیرایی یه موضوع بود که هرمشو مقرر هست فقط شاید بود یکی هم یکی حالا خودشه گردن بگیره همین آلواز <husen> <ull any> <draining> من تموم شد تقریبا تموم الان شما می‌خوای صحبت کنی اگر امکان داشته باشه صحبت اگه جواب سریع هست صحبت تا چیز بشه اگر نه من میخوام چیز بکنم من به نظرم صحبتی که دارید می‌کنی به هیچ جا نمی‌رسه به خاطر اینکه حالا صحبته که اینجا میخوام بکنم اگر میگه تولانی میشه اشکال نداره من این رو اعراعش کردم باست. یعنی اصلاحیدش باست. کردم که بشه این مدیریتش کرد آره خب اولین که اکاشین رو میشه تو یه جوری گوزش که افلادم بزونم ببینه اگر حالا لازم شد نمیزن برد. نه برده نمیزن هم برده نمیزن هم برده نمیزن من اول بگم که الان من در مورد تهلاگ اگه در صحبت می کنم منظور تهلاگ دات او یه وقت اشتباه نکنید با تهلاگ های دیگه‌ای که وجود داره خب اینو میگم که تو این صدا باشه که اون کسایی که خیلی حساسیت دارن انجا کسی هست کلا میگم تهلاگ زنش بره سمت تهلاگ دیگه ای نه همین میگم می خوام همین رو بگم که دارین میگید مگه وجود داره من گرفتمش آره من گرفتمش به عنوان که اگر لازم شد استفاده بشه امیدوارم کار به اونجا نکشه ا اینجاست که اگه میگیم لاگ تصمیم گیرش کیه فکر کنم همون همو میفهمیدیم چی داریم صحبت میکنیم لاگ حالا بعد صحبت خب من ب... یه چیز رو فقط واسه بشیدشم گفتم بگم بگم چی کدی ثانیم کوتاه آقا شما گفتین بس ارا دهنده دانیال تیکان اینو بگم من... یه جمله است فقط یه جمله است راهی کار به اونجا میتشید که به من زنگ می‌زدن بچه‌ها چون من موقعی که لاگ تهران بود خب آواتک، حالا یه مدت هم توی یه جای دیجه بودم نیست ولی بچه ها من زنگ میزدن، رفتن فریدونی، عباره دهنده نیست، تا شو بیا من ادهاک عباره آمده میکردم، در لحظه عباره آمده میکردم یعنی اینو بگم فقط بدونی، یعنی عباره دهنده واقعا بعد التماس کنیم یعنی نداشت، حالا اینو میشه بعد گفتشون آره، بره بره یه چیزی هست که لازم شد کنم بزرگ نوشتارشو دارم میخونم دیگه ولی سه نمودار نموداره که از دورم میبینیدش آره توضیحش دارم میدم اول که ما یه سه چیز دست هم. یه همچین مفروضات اینجا دارم اگه کسی اینجا با 90 درصد چیزی که میگم همراه هست من برم جلو اگه کسی با چیزی که دارم میگم واقعا مخالفه همینجا بگه که ما یه وقت اساس پیش غلط ما یه دنبالی یه وضع مطلوبیم که توش لاگ قرار برگزار بشه جلساتش مستمر باشه، مؤثر باشه، افراد لذت ببرن از تو جلسات بودنش و یه مشارکت همگانی وجود داشته شد رو دوش دو نفر نباشه این وضعیت مطلوبی که حالا یکمی این برتر یکمی اون برتر فرمی همگی دنبالش هست وضعیت فعلی که توش هستیم واقعیتش که لاگ تحتیله برای مدت‌های طولانی برای لاگ تحت مشارکتی وجود نداره تا یه زمانی من برگزار میکردم بعدش رامی زحمت می‌کشید جا پیدا میکرد نمیکردیم هیچ کس نبود که اصلا چی؟ چیز بکنه جلسه رو برگزار بکنه من اینجا یه سوال بپرسم از دوستانی که اینجا هستن برای اینکه از دوست جلوتر نپرسنمش از دید من از دید من لاگ یه رویداد محلیه با موضوع نرم افزار رو آزاد رویداد محلی یعنی که لاگ تهران توسط بچهای تهران برگزار میشه لاگ شیراز توسط بچهای شیراز برگزار میشه من از مثلا کابل من نباید بیام جلسات لاگ برگزار کنم یا اگه من تهران هستم ولی تو جلسات لاگ با بر... شرکت نمیکنم من نباید گیری تصمیم‌گیرهات چیز بکنم کسایی که تو جلسه نشستن محترم رتب دارن شرکت میکنن اونها هستن که تصمیم گیر هستن اونا هستن که باید تعیین بکنن که جلسه به چه چش... به چه شکلی بره جلو یه نفری حالا تو گذشته دور زحمت کشیده در دستش درد نکنه الان لاگ به عنوان یک رویداد محلی اصلا محلی بودنش به خاطر اینه یعنی که تمرکززدایی بشه توان بشه تو جاهای مختلف همه توی نقطه در واقع چند نفر نباشن که تجربه کسب می‌کنن و اینکه مای ما کامیونیتی رو فکر میکنم هیچ تعریف درستی ازش نداریم. منم الان اینجا نمی‌خوام یه ای تعریف دقیق ازشreloadData بکنم. برعکس چیزهای مختلفی که من خوندم یه چند تا نکته رو به نظرم می‌رسه که میتونیم بزنیم که دیگه من یه چیز تعریف ارائه میکنم کامیونیتی حالا اجتماع سالم مرکب است از اعضایی با ها و اهداف مشترک فرا... فراتر از نفع شخصی که به صورت خودانگیخته در فعالیت‌های مربوط به آن مشارکت میکنن چندتا نکته توش مهمه. اینکه از اینکه که از و اهداف مشترک دارن اون اهداف فراتر از اهداف منافع شخصیه چون اگه قرارمش منافع شخصی با ما در ماند بازار داریم صحبت میکنیم تو بازار توی بازار آزاد افراد فرض برای این هستش که افراد به عنوان موجودات آقلی هستن که برای حد درکسر کردن منافع شخصیشون دارن فعالیت میکنن کامیونیتی با بازار متفاوته کمیونیتی با بازار متواضعه از این جهت که افرادی که هدف بالاتر از نفع شخصی دارن از اونجا بودن، انگیخته است و اینکه توش مشارکت میکنه. حالا میبینید هنوز اینجا رو؟ خب. نبوش یه نمودار اینجا میبینید دیگه. یه نمودار یک, یک چارم یک چهارم سه چارمه خب. به نظر من یه اجتماع سالم، یه همچین ترکی بوده داشته باشه. تعداد اکثریت افرادی که اونجا هستن، خودشون رو جز اونجا میدونن. وقتی خودشون جوزه اونجا میدونن یعنی که دست بده دارن سعی میکنن کمکی بکنن حالا هر کسی هر چقدر که میتونه و یه تعدادی هم هستن که بالاخره اونجا حالا بیان به عنوان حالا من اسمشون اونجا گوشم نظاره گر کسی که میاد تو جلسات شرکت میکنن مثال ساده بخوام بزنم توی خانواده یه بچه شش ماهه یه ساله دو ساله هنوز مهارت هایی کسب نکرده که بتونه بیاد چیزی به خانواده اضافه بکنه از یه سنی به بعد متناسب با فرهنگی که تو خانواده هستش شروع کنه بیاد مشارکت کردن کمک بکنه جای تمیز بکنه خلاص کارای میتونه انجام بده. تبیت ما تو هر کامیونیتی افرادی داریم تازه اومدن، دانششون کمه، اعتماد به نفسشون کمه. طبیعه که اینا رو بخویم داشته باشیم و البته اکثریتی که بتونن مشارکت بکنن کارها بره جلو. ولی واقعیت اینه. من این سوالی اینطوری می‌خواستم، می‌خوام بپرسم. تو 5 سال گذشته میگم 5 سال گذشته من پنج سال از اونجایی میارم که لاگ عملاً آواتک تو دانشگاه تهران که بود. جاش می‌خواست عوض بشه ما دیگه جا نداشتیم از اسفند 96 ما دیگه عملاً دوباره افتاد سر اینکه دیگه یه پیشورزی که جا هم داریم تو آواته جایی با کلاس بزرگ خلاصه همه چی مهیا فهمیدم اونجا هم پذیرایی هم اونا میدادن درسته همه چی بود دیگه چای بود قهوه بود شیرینی خوب بود واقعاً پذیرایی خوبی بود از اون از اسفند 96 به بعد ما دیگه جای ثابت نداشتیم تا بعدتر که رامین چیز رو هماهنگ کرد زاویه رو هماهنگ کرد درست میگم؟ نه سه موقعه داشت یعنی خود نه سه موقعه نبود شد زاویه آها آها نه خب ولی جلساتمون خیلی بدترش شد چهار ما من بلا برگزاری کردم من داودیان که اون موقع برگزار شد دیگه نشاط جامعهی دانشکده تهران بود با اون برگزار شد یه جلسه اونجا برگزار شد حالا حالا حالا میشه اینا نشاست شمر میشه چیزش که ما هد... ما دو تا جلسه لاگ اصلا تو باغ کتاب برگزار کردیم دو جلسه تو سرير برگزار شد این اتفاقات شش ماه بعد یعنی من فکر می‌کنم اولین جلسه خب نه اون کشی من بحث ندارم بحث ندارم بگم یعنی یه, یه شیفتی اتفاق افتاد من پنج سال از اونجا دارم شد. از اول سال 97 دارم شروع می‌کنم از کسایی که اینجا هستن که فرض من برای این هستش کسی هستن که برای لاگ دغدغه دارن دوست دارن لاگ برقرار باشه. اصلا اومده تو این جلسه بخواد که دغدغه داشتن سوالو بنه که کسی هستش تو این 5 سال حداقل یه جلسه برگزار کرده دستشو ببره بالا خود هم پیپر بوله دیگه بزنبه. تو اگه <تصفيق> <تصفيق> جلسه مجلس نکردی نه, <بزنبه> <بزنبه> نه. حداقل یه جلسه برگزار کرد میشه ما الان سه نفریم دقل. سه نفریم خب ما سه نفر الان چیز کنیم تو 5 سال 60 تا جلسه میتونه برگزار بشه به طور بالقوه حالا یه تعدادش تلفات داشتیم به شکل مختلف آقا 50 تا جلسه میتونه برگزار بشه سه نفر فقط برگزارش کردن از جمعی که الان اینجا هستیم خب حالا دقیق نیست چون مثلا جلسات سری رو محمد امین جوادی مثلا همراهن کرده بود یعنی چند نفر دیگه ای هم بودن ولی کلا همه رو بسازیم رو هم دیگه من نمیدونم 5 نفر فکر کنم روی چه می دیگه می چه بکنیم کیو تصمیم بگیرن که میخوان چه کار بکنن اگه من تا تهش دیر نمیشالد از اسفند من حرف بزنم یه حرف بزنم یه حرف بزنم دلم من،, من دو روزه تلاش کردم که اینو بتونم کمتر از سی دقیقه ارائه بدم. اگه بحث توش پیش نیاد میتونم سعی تر برم جان خب باشه رعی بگی آقا دوستان من ارامو ادامه بدم اگه فکر میکنید ارام... ادامه ندم من پنیقه پن چیزی بگم و برم اصلا خب من چیکار بکنم حرفایی که چهار سال مونده هیچ نمیذارید زنده بشه خب مهم همین مهم من دارن میچینم که برسم بهش نمیذید دیگه اگه اگه جنب مخالفو بلند صحبت میکنه او سه نفر نه فکر نمی کنم. یه نفر دو نفر اون 4 تا آخر اگه لازم دارید میشید ممنون خب وضعیتی که واقعیت لاک هستش این هستش که ما یه تعداد خیلی کمی داریم حالا عددش عدد دقیقی نیست یه تایی خیلی کمی داریم که فعالن تازه خیلی کمی دارن که آدمای فعالن دارن کمک میکنن برگزار بشه و بقیه عملا فقط ناظرن دنبال اینکه کی جلسه برگزار میشه ما بریم شرکت بکنیم حالا از این نمودار ما چند تا سوال در میارم که باید ما بین جواب بدیم نتونیم بین جواب بدیم هر تصمیمو امروز بگیریم دوباره و چند سال دیگه دوباره بشینیم در مورد همینجا چیزا صحبت میکنیم یک این که دلیل اینکه نظارگرای ما بیشترن چیه چرا لاگ نمیتونه چرا تو این سالها این همه سال از سال 84 8 تا 4 شما فرمودید لاگ شروع شده؟ بلد. بلد. میشه چقدر 18 سال؟ خب 18 سال لاگ ما سابقه داریم. 18 سال فعالیت طولاگ این همه تجربیاتی که کسب شده. چرا لاگ ناتوان بوده؟ از من م... مشخصم دوست دارم که شما هم صحبت‌ها رو داشته باشی او. اوکی. خب ما چرا تو این 18 سال ناتوان بودیم از اینکه بتونیم افرادی که میان به عنوان نظارگر افرادی که میان تو جلسه در کار خاصی نمی‌کنن تبدیل بکنیم به افرادی که فعال باشن مشارکت بکنن تو برگزاری این یه سوال سال دوم چرا لاک فعالیتاش به شکلی هستش که کسایی که اتفاقا فعالیت میکنن، تصمیم بگیرن که فعالیت نکنن این دو تا سوال رو من به نظرم باید جواب بدیم بهش من می‌گم اینکه این کمی جلوتر کار از این یه مقداری این نموداره به این سادگی نیست کسانی این ما توی این 18 سال بالاخره تو هر کامیونیتی که داشته باشیم افرادی هستن که یه مقته اومدن فعالیت کردن، مشارکت کردن، تجربه کسب کردن و اینا از یه مقته به هر دلیلی تصمیم میگیرن که توی لاگ نباشن شماره تصمیم میگن توی لاگ نباشن اینا کجا میرن؟ این افرادی که تو اون قسمت فعال هستن انجام میگن بیرون کجا میرن؟ یه سریشون هستن که کلا میرن وا چی منافتی آقا من بزن رو بکنم بگم گیر کار کجاست دغدغه شما شاید حساب نمیشه بله نه آقا من بگم حرفم دیگه خب آقا من باز نمیخوام بگم که من هر از من حرف بعدی آقا یه دیدی رفتن بعد دوستان با کلاس شما بودن مثل ما عمر نبودن تو ایران باشن رفتن هرجوری نشا غیر از ایران دست می‌ذاری از اون آدم با کلاس پیدا میشن رفتن دیگه کارش موقعیت کاری پیش اومده رفتن خب، بهزای دربیتم میزونه عاشقانه میزونه. خب، یه دایی هستن که میذن اصلا از از این دایره خارج میشن. از دایره تهلاک خارج میشن به دلایل مختلف. میخواد بره به زندگیش برسه. زن میگیره، بچه داره، بالاخره کار داره، نمیتونه بیاد دیگه تولاک شه. کلا میبوسه میزونه که اصلا انگار که من تولاک نبودم. هیچ اشكالی هم نداره انتخاب بشه. یه دایی هم ممکنه از اینجا برگردم بیان بشن فقط میگه از این وقت تو جلسه فقط میام شرکت بکنه درسته؟ میتونین باشه ولی گزینه‌های دیگه هم وجود داره. به نظر من توی حالت می میشود گروهی رو در نظر گرفت که از فعال بودن خارج شدن، دیگه جلسات برگزار نمی‌کنن، مشارکت فعال ندارن، ولی تبدیل شدن. حالا من اسمشون می‌ذارم گروه پیشکسوتان. تبدیل میشه به کسی که میشه پیشکسوتان ما. پیشکسوتانم تو هر شغله و حرفه شما نگاه بکنی ازشون انتظار میره. معمولا اینطوریه شما کار که به گره میخوره به تعارض میخورن افراد نمیتونن حل بکنن. و وقتی موقعیت جدیدی شدن درسته شما رو ندارید نمیدونی با چه کار بکنی این پیشکسوت کسا هستن که سردو گرمو چشیدن قبلا موقعیت مختلفو دیدن از اون تجربهش میتونن بیان کمک بکنن که گره‌گشایی بشه تا اینکه اشکان نذره چیزی که دارم میگم که خیلی خوب حالا من با ترجمه با کسایی صحبت بکنیم که در مورد جامعه شعر نرم آزاد و جامعه نرم افسان آزاد و تلا مسئله داشته باشن دغدغه داشته باشن خب نه فیلتر نمی‌کنم میگم ترجیح من اینه دیگه من ترجیح برای خودم میدم من ترجیح خودم رو گفتم نگفتم شما رو ساکت میکنم خب خب حالا همین برسیم حالا نکته اینجاست نکته اینجاست من سوال میخوام بپرسم ببینیم وضعیت این پیشگفتو چیه من از دوستان میخوام واقعا نظر بدن خب نشین اینجا همینجوری نشین من نمیخوام فقط اینجا حرف بزنم من دو تا مثال اینجا میخوام بیارم و میخوام شما می خونم میدار میگرم میشه. میخوام می یک نفر رو برای من اسم بیاری یک نفر که اقا سه سال تلاگ تعطیل. اینطوروریم که تعطیل باشه هیچکس حرف نزده بارها و بارها من حرف زدم مطبه به چیزهای مختلف شدهیه حدقل ما یه مسئله ای داریم که یه نفر هست که داره غور میزنه ساادش میخواام نگاه بکنیم یه طرف هم هست که لاگ تعطیل به مع واقعی کلمه یه مسئله است مسئله ماجرا به من توهین شده به من اهانت شده حرفهای بیفت به من زده شده. یه نفر میتونید برای من مثال بیاری نه در موردده منام بخره نجات بیاد من چیز بکنه. اومده باشه چیز بکنه که آقا لاک چرا تعطیله؟ بیاد این گره لاک رو باز بکنه. یه لحظه اولونا. چی؟ کرونا کرونا سال اول... آه. آه. کرونا پیشکسوت ماست. من یه پیشکسوت مثال بزنید که اومده باشه این وسط مشکل حل بکنه. سال اول کرونا میگیم آشه. آقا مجلسه حضور نمیتونستیم داشته باشیم. اصلا فرض رو من بر این میذارم که همه اعضای لاک، همه افراد نشسن تصمیم آقا ما نمیخوایم لاک برگزار کنیم. خب سال دوم که همه چی برقرار بوده که سال سوم که همه چی برقرار بوده که میتونسته برقرار باشه دیگه ملت مدرسه میرفتن دانشگاه میرفتن ملت سر کار میرفتن آقا پروتکل الان شما بشین با فاصله بشین از هم دیگه میشد شما... آه... نه وایس آقا بز من صحبت آقا جلسه تعطیل بوده سواله سواله من پیشکسمت پیشکسوتی دوم... پیش پیشکسوتی بوده پیشکسوتی بوده. پیش بوده که توی ایام کورونا توی ایام کورونا نگاه نگاه نگاه آقا میزن من صحبتمو تموم بکنم بعد جواب بدیم من صحبتمو تموم بکنم من که بشت... من تموم کش من نویسم جوابامو آره خوب آره. بلویسیم آره <تصفيق> نگاه کنید در ایام کرونا کلی رویدادهای دنیا به صورت مجازی برگزار شد تنها رویدادی که توی ایران اصرار داره که آقا ما نمیشده برگزار بکنی و اصرار داشتیم که مجازی هم برگزار نشه خب تنهایت چیز ایلاگ تهرانه آقا اینترنت خرابه چی چیچه خرابه چیچه خرابه بفرماید باشه باشه <تصفيق> نه، واستا، واستا. <تصفيق> نه، من حرفم رو می‌خوام برسم. برسم, برسم. خب شما حرف منو خراب داری میکنی الان. حرف من تموم بشه، حرف من تموم بشه شما صحبت بکنید. شما داشتی صحبت که من تو صحبت شما نیومدم. خب من چرا باید بشینم؟ من چرا چهار سال نشستم؟ من چهار سال نشستم دیگه صبر کن. من جمع کنم برم آقا برام. آقا شما اینجا همه چیز لایگ دست شما از هیچ مسئولیت بد برو. چرا mirror.com به شما فشار اومده؟ خجالت خجالت میکشم خجالت میکشم مثلا ما اومدیم اومدیم متمدنانه مثلا آدم اومدیم بشیم حرف بزنیم خب خودت که خود شما گفتی من جنبش نرمفسر آزاد باش مخالفی دیگه نیستی با جنب... جنبش نرمفسر آزاد مخالفی با جنبش نرمفسر آزاد گفتی مخالف هم دیگه من چیکار کنم خودش میگی دمت گر مدا من, من هم اولش گفتم که اینقدر طول میکشه. بذار من صحبتو اگ نه آره میدونم خب نه خب بس بس تو بحث که میاد اینطوری میشه دیگه میدونه متوجهم هم. خب همینا خب خب من میگم میگم میگم بذار من احرام تموم بشه بعد میشیم صحبت میکنی توی این سه سال یه پیشکسوت نیومده این مساله رو بخواد چیز بکنه حل بکنه دومش تیر 99 من اصلا کاری ندارم کی راست بود کی درست میگفت چی غلط میگفت یه شکاف عمیق ایجاد شده بود بین یک سری اعضای جامعه ان ام افسر آزاد کار تا اون حدی بالا رفت که حالا دروغ و اینا شو کار کار به فحاشی ناموسی هم کشید تو فضای عمومی. این میخوام میگم که مسئله مسئله جدی بود. برای اولین بار 460 نفر تو جامعه نرم افزار و من یه بیانیه امضا کردن. من کار ندارم اون بیانیه کیفیتش چی بود. کار نشون میگه کار،, کار کار جدی بود. یه نفر پیدا شد بیا تلاش بکنه بین این طرف و اون طرف یه پله میگم یه تناب بزنه که یه ارتباطی بین اینا ایجاد بشه که بشینن با هم دیگه حرف بزنن. نه یعنی کسی می توی یه نفر رو مثال بیاره که تیر 92 تو اوج اون وضعیت هیجانی اومده باشه تلاش کرده باشه گفتگو بین طرفین این ای ماجرا شکل گرفته باشه یه نفر مثال بزنید تیر 99 قضیه همون انجمن انجمن لارمفسر آزاد مطبوعس بحثایی که نه. نه نه نه نه میخوام میخوام به کارکرد پیشکسوت‌ها رو میخوام بگیم میخوام بگم های ما کاری میکنن دو تا بحث جداست آقا تولا اصلا هرچی عضو لایک وظیفشی ندارش به آره لایک بسوزه اون بحث اصلا یه چیز جدایه خب باشه مورد اولا که باشه باشه, باشه. آقا من بحث نبه خب من دارم از باشه لایک بودم ولی یه فعالیت دیگه اصلا مسئله اصلا دارم. کار آقا من میخوام بگم که ما پیشکسوت نداریم اصلا اینجا کسی کار پیشکسوتی بکنه ما نداریم خب هر اختلافی پیش میاد تا تایش میخوام بریم طرف رو بزنیم زلیل بکنیم. دنبال این نیست که مسئله را حل بکنه با گفتگو یه آدم ریش سفید نداریم بیاد اینجا بشن، حرف بزنه خب ما پس چیز نداریم حالا سوال من اینه اون کسایی که دیگه یه زمانی به بعد فعالیت نمیکنن کنن چه کار میکنن کجا میرن اگه بیرون که نمیرن تو جمع نظارگره هم که نمیان کار پیش کسوتی هم که نمیکنن، اینا کجا میرن حرف من اینه اینا نه تو، توی این چرخه، اینجا نمیان که چرخه به چرخه اینا میشن یه زائده ای بر این رویداد بر این اتفاق بر این کاری که ما داریم میکنیم کنیم همین رو بدید به جامعه نرم آزاد من اسم اینا رو گوششون سرقفلی دارن خب اینا کسایی هستن که مشارکتی ندارن فعالیت موثری نمی کنن، کمکی نمی کردن اتفاقا آتش بیار مرکن در مقاطع مختلف فعالیتایی که می آسیب زا که می به خاطر نوع جنس فعالیتی که دارن بر این... این که تو اینجا ارتباطات به سمت ارگانیک بتونه پیش بره در واقع اختلال ایجاد میکنه مسئله اینجاست. حالا اتفاقی که میافته ما تو تو تهلاگ اگه بخوام بیام نگاه بکنیم وضعیت اینه. چند بار من بیشتر از ب... ب... رامین اشاره میکنم بیش... بخواد اینکه فهم میکنم بیشتر از هر کسی دیگه تو تهلاگ من رامین رو دیدم. رامین چند تا از جلسات تهلاگ تصمیمات مهم در مورد تهلاگ توی جلسات جلسات اینجوری جلسات فیزیکی آدمای فیزیکی ما نشسته باشیم گرفته شده. کلاً ما جالس تو همون کانال تلگرامی هم. کانال تلگرامی لیک اینجا لینک گذاشتم لینک گذاشتم الان من میتونم بگم از زمانی که لاگ شروع شده یعنی توی اسنپ اکسپرس باگ شد، شد همون همه نزدیک سی نفر اعلام آمادگی کردن که آقا ما میخویم نیرو طلب باشیم به گروه تهلاکی اضافه شد این از اینکه یک نفر اعلام آمادگی کنه اوکی من اون گروه الان هفتاد نفره از اون هفتاد نفر الان چند نفرش اینجا دو نفر نه بیشتر پایناف مثلا خوب. بیشتر که نیستش حالا بخوام همینه میخوام میگم بخوام, بخوام, بخوام, بخوام, بخوام تو اون گروه کسی تس... کی... که اعلام آمادگی میکنه نه میاد دیگه نمیاد. میاد نه اوکی نه. اوکی, اوکی. بس اون نیست بس اینه که ما اگه جلسات اینجا داریم میذاریم بخوام مثلا خوب داریم میزنید کانال تلگرام داریم گروه تلگرام داریم اونجا بشنیم چیز بکنیم اونجا شده جمع افرادی که هیچ کاری نمیکنن کاری نمیکنن دیگه تاسیزم من بگم مصطفى نه از زمانی که یعنی من از بهنام تحوی گرفتم این کارو شروع کنم یعنی هیچ کاری نبوده بدون قضیه بهنام انجام بدم با بهنام صحبت کردم بهنامی بهنام بهنام انجام... که بهنامی که تو جلسات نیست خب. هیچ کمکی نمیکنه بدون این قضیه نمیکنه دیگه منی که تو جلسات میام می شرکت روز روز میکنم, میکنم دفتر سه روز کلافه شدم یعنی صبح تا شب بنده خدا سر سرویسه اینا درست کردن سفارش اومده. خب منم باشم نمیرسن. خب ساعت 11 شب خب نمیرسه بده دست شما دیگه خب شما کارت بکن من. دیگه. مشاورش از این میگیرن. خب مشاورش از ایشون میگیره. آره. کسی که تو لاگین نمیاد شرکت بکنه. ربت خب نه, نه خب باشه باشه. مثلا من جلالتار اله مثال لازم باشه میزنم. مثلا این که تصمیمات لاگ تهران توی جلسه لاگ تهران و کسایی که تو جلسه شرکت میکنن گرفته نمیشه. خب مثال برات میزنم. اگر اگر مثال برات میزنم. نه اونجوری باشه. من رای گذاشتم. نظر سنجی گذاشتم. کجا؟ تو خود تهلاک گذاشتم که آقا برگزار برگزر... کنیم نه تو جلسه آره، تو نه توی جلسه فیزیکی یا نه؟ تو تلگرام تو تلگرام همینه آقا آقا, آقا، گروه برگزار, برگزار کنندگان داشتم. شده آره. انقدر گروه تلگرام تهلاک شده انقد ماجر سروش خود تهلاکه تحلاقی... س... بالاخره یه گروه چهار نفر توشن دیگه خب بالاخره فعالیت میکنن من, من نمیدونم شما که من از گروه انداختی بیرون خب من اگه اونجا انداختی بیرون چه خبره خب مسئله اینه که تو تصمیم های لاگ تهران واقعیتش تو جلسات تو جلسات فیزیکی که مثل این ما میشیم دور هم دیگه سهم جلسات ما سهم افرادی که تو جلسات شرکت میکنن از تصمیم گیری لاگ تازه این نیست من انقدر بگم که فقط بتونم چه رسمیش بکنم جلسات ما هیچ تصمیم گیری توش انجام نمیشه برای تب... تصمیم گیری آخه نداره آقا تصمیم گیری نداره سایت سایت آقا یه روز سایت تو رو شما جابجا کردید دیگه از سایت قدیمی به سایت جدید خوب. همون زمان بچهای توی لاگ بودن میخواستن سایت بزنن خوب. بهشون گفته شد نه یه دفعه رفتیم خوابیدیم دو هفته بعد بلند شدیم رفتیم به سایت جدید اومده بالا. سایت از کجا داره میاد بالا؟ آقا کسی که میگه فعالیت می کنه، یه سه چهار جلسه بیاد. خب بسم الله الرحمن. آقا رحم. سینا حق، سینا عقیقی بارها تو اون جلسات اومده بود. جلسه اولش نبود که چیز باشه. سینا عقیقی اوکی بود. ولی خب، بهش خب، گفتین، گفت آقا گفتیم. وقا یه نمونه بیار بالا. خب. ببینیم چه فرصت دادید بیاره بالا حسن. تو جلسه بهش گفتید نه. حالا بماند. مثاله. نه، نه, نه، مثال می خوام ب... مثال ببینید که توی آر باشه. بگم که هیچ تصمیمی تو جلسات چیز تو همون خب اگر شما پرسیدم جواب بده آره خب وضعیت اینه هیچ تصمیمی هیچ تصمیم مهم تهلاگی توی جلسات فیزیکی تهلاگ گرفته نشده من توی این 6 سال خورده ای که اومدم تو تهلاگ رفتم اومدم اون واسط چند بارش نبودم البته خبردار بودم هیچ تصمیم توی جلسات فیزیکی تهلاگ گرفته نشد حالا من میخوام یه چند تا 20 نشریه چیز بگم اینجان فقط می‌خونم رد میشم پیش بشید چند تا اشاره می‌کنم این سایت تو فوربس دومم پیش پیشه چیز منتشر شده من به نظرم بد نیست اینا رو مرور بکنیم نشانه ای از یک جامعه فکر میکنم مسموم رو میتونی به ما بده هرچند چیزی که داره صحبت میکنه در مورد یه تیم آی تی توی یه شرکته من فکر می‌کنم میشه یه مقداری اینمونرش کرد تطبیقش داد مورد اولش من اینو توی تعبیرش کردم نرخ بالای خروج نیروهای فعالش این که اون قسمت سبز تعلک هیچ وقت بزرگ نمیشه، همیشه کوچیک میشه یکی از چیزی که ما اینجا می‌بینیمه اصلاً تهدید داخلی به این معناست که در واقع تو اینو با توضیح بده مح... مح... مح... مح... مشخص نیستش تو متنش نوشته که کسانی توی جلسات توی... توی تیم انتقاد دارن نظر دارن نگاه متفاوتی دارن و به اینها اصلا توجه نمیشه تحقیر میشن به حاشیه ها رونده میشن و اینا تبدیل به تهدید میشن این تهدیدات وقتی در زیاد میشن یعنی نشون میده که این فضا فضا سالمی نیست مسئولیت پذیر میان رهبران برای خودشون هر کاری, هر کاری میکنن هیچکس نمیتونه حتی سوال ازشون بکنه. چهار سال گذشته یک دفعه شما جلسه نگذاشتید که ما بتونیم بشینیم سریح سوال بپرسیم و سریح جواب بشنویم. هیچ وقت اتفاق وجود نداشته. هر کاری خواستید کردید بیانی سیاسی دادید در حالی که شما نگران این بوده که م باد جامعه نرمسه آزاد بزرگ میش تنش برای به طرف دولت بخوره. طلا به سااف اخید سیستم طالی امنیتی کشور. آکی کی بعد پس مسئول باشه خوب خوبش نمیدونم هیچکس پاسو خوب نیست عدم رسمیت شراختن اشتباهات و یا یاد گرفتن از آنها. آقا آدم اشتباه میکنه آقای بهنام توکلی مصطفی منگرها دانیال بیزودی اشتباه میکنیم آقا این اشتباه میشه به رسمیت شناخت میتونیم بپذیریمش، ازش یاد بگیریم و بریم جلو اصرار رو, رو بکنیم که بخوایم همدیگر رو خراب بکنیم اصلا ما رو به جایی نمیرسونه عدم تمایلی به همرسمی دانش اینو من بس پولانی میشه بخوام بکنم پیشان فناوری نکسب بکن کسب و کار کس رو اینجا ما باخوایم تبدیلش بکنیم به اینجا فلسفه وجودی ماه واقعیتش تهلاک چیزی که داره می صحبتی صحبت که بهنام توکلی کرد اینجا یه جایی که ما برنامه نویس ها رو میخوایم از پای بردیم بیایم همدیگه رو ببینن اصلا فلسفه وجودی اینجا شده برنامه نویس جماعت اینکه الان داره قسمت آIT داره میبرید ارائه ها داره اینجا رو میبره جلو شما اگه برنامه نویس باششه تو هیچ جایی نداری هیچ کس آدم من به عنوان کسی که مدیریت بازیگران خوندم بعد فراییت رسانه ای کردم بعد علوم سیاسی خوندم اومدم اینجا برنامه نویس نبودم توی مایا میتونم بگم که هیچ کس من آدم آدمم حساب که وقتی حرف میزدم قربون شما دخالت در حریم امور تماس تبریر رهبران من اینو ندیدم من هیچ چی هم چیز نشد عدم تمایل به رشد واقعا من هیچ وقت ندیدم که تعلق دوستاششون بزرگتر بشه به صراحت از شما شنیدم که میگم جامعه نرم افزارات میخواد کوچیک باشه که هرجوری که میخوام تعریف اصلا مسئلهمون نیست آقا ما از اینی که هستیم میگیم بزرگتر بشیم میگیم جدیتر بشیم اثر بشیم اثرگذارتر بشیم آدمای بیشتری بیان آدم های... نمیدونم هرجوری که بتویم با... روش اصلا هیچ وقت بحث ما نبوده بحث ما برین جلو دیگه چه هفته بعد کی جلل کی ارائه داره یک رویه رو همینجوری فقط میخواستیم ادامه بدیم هیچ وقت چیز نمید. هر صحبتی هم می که ما بیایم این رویه رو تغییر بدیم صحبت میشه آقا ما بیایم مثلا جلسات تو مجازی برگزار بکنیم بفرخه یه فرصتی میشه ازش استفاده کرد بلافاصله همونجا میگن نه آقا حالا بزن حرفشو بزنه حالا شاید حالا یه ایده ای داشته باشه همون بلافاصله حرف قطع میشه ترس از شکست رو ارتکاب اشتباه ترس از افراد جدید خیلی از افرادی که نمیان جلسه برگزار کنن اینجا کسی هستن که حداقل مثلا پنج جلسه شرکت کرده باشن تو لاگ ولی جلسه برگزار نکرده باشن خرابه چرا برگزار نکردی مثلا میخوام اغرتش رفت جلسات حضوری دیگه جلسه غیر موزی آقا آقا چه می دی... آره برایش دیگه دیر وقت بوده خیلیه باشو صحبت آقا چرا جلسه برگزار نمی کنید میترسن که آقا من برگزار کنم کسی نیاد من برگزار کنم ارائه ها خوب نشه میگه آقا می کنید دفعه اول خراب دفعه دوم بهتر میشه دفعه سوم بهتر میشه آفرت میترسن چرا چون اعتماد وجود نداره چون حمایت وجود نداره تو این سالها به شکل های مختلف علی قشمن ده عینه تو این 6 سال دیدم که هیچ اعتمادی به من وجود نداره اون رو توسط کسانی که هیچ فعالیتی نکردن دقیقاً تو سالهایی که من همه جوره فعالیتم کردن هر کاری من بکنه به من هیچ اعتمادی وجود نداره نمیدونم چه جوری بعد اعتماد آقایونو کسب بگم چرا اعتماد آقایونو باید کسب بکنه این باعث میشه که در واقع من فکر می‌کنم این یکی از عواملی هست که برای افرادی که تو قسمت خاکستری هستن جرأت این رو نمی‌کنن که بیان چیزا بهشون فرصت داده نمیشه حرفشون می‌زنیم ولی فرصتی داده نمیشه که بتونن فعالیت بکنن فردان مشارکت گروهی که دیگه می‌بینیمش فشار بالا روی تیم وقتی فشار روی یه نفر دو نفر دیگه طرفم یه جایی می‌بره دیگه تغییر 38 اولویت ها ما اینجا هیچ چیزی نداریم ولی از اون طرف ما هیچ اولویتی نداریم تلا هیچ اولویتی نداره چون هیچ فلسفه‌ای نداره هیچ هدفی نداره هیچ نداره که برایش می‌خوایم مبارزه بکنیم برایش می‌خوایم بجنگیم ببینیم آقا الان ما بین این ده تا چیز مجبوریم رو بزنیم روی این 3 تا چیز اول. اصلا یه همین چیزی. همینجوری میایم جلسه رو برگزار میکنیم پرهیز از گفتگوهای سخت. ما هم مثلا چی داریم میبینیم آقا این گفتگو چهار سال بعد چهار سال وقت داشتیم که ما بشیم در اینا حرف بزنیم. یه نفر مثلا آقا مصطفی آهنگرها داره پرت و پلا میگه. هزیون داره میگه به شما در من خیال پردازم. خب؟ مشخص بشه همگان بشنون آقا دیدید آهنگرها همه حرفه که میزد حرف رو هوا بود نه آقا نه حرفاشو همش رو هوا آقا دو میشه گرفت میشه یه کاری کرد هر دفعه صحبت از این شد که چیز بشه یا جلسه رو قطع کردن تو فضای مجازی بود منو تخطی کردن اینکه خب نمیشه ما همیشه از بحثه سخت همیشه فرار کردن. هیچ وقت تو تاریخ تعلق من یادم نمیاد که ما نشستیم بشیم در مهم بحث کرده باشیم صحبت کرده باشیم عدم شفافیت بوز شفافیت در پروژه ها خریدیم مثلا شیوه انتخاب مدیران گروه تلگرامی چون نمی‌دونم واقعا چجوریه این همه سال بوده من نفهمیدم چجوریه اون با تلگرامی رو ما چرا انقدر طول کشید تا بتونیم حسش بکنیم چون اصلا معلوم نیست بعد چه کار بکنیم بعد بریم با کسایی سر کله بزنیم که نیستن گفتگوها مرتبا توسط چند نفر مصادره میشن به این معنا که حرفای دیگرانی اونجا سانسور میشه سرکوب میشه که عملا فقط روایت چند نفر باقی بمونه دوري همینجا داریم, داریم میگوییم. فقدان بحث‌ها این چیزا جالبین به من دیبیتش در واقع. من از اون اولی که اومده محترم میبینن که آقا تو چرا بحث میکنی؟ سر هر چیزی بحث می‌کنین. دوستان ماجرای تیره ماجرای تهلاک از کرونا شروع نشود. من اسفند 97 شروع کردم انتقاد کردم به این سری که توی تهلاک خطرناک میدیدم معتقد بودم این رویه ها باعث میشه که به مشارکت آسیب بخوره و نهایتاً برسیم به اینجا که هیچکس اصلاً احساس مسئولیت نمیکنه برای برگزار کردن جلسه. من هیچ چیز میگم متهم میکنین که آقا چقدر بحث میکنین هیچ مکانیزمی وجود نداره که ما بتونیم بگیم آقا باشه یه جلسه اضافه میذاریم یه جلسه اینجا آقا جلسه بعدی که گذاشتیم آخرش یه, یه ساعت بیشتر میشینیم در مورد موضوعات صحبت میکنیم نیست همچین چیزه هیچ وقت نبوده فرهنگ قهرمان پرور به این معنا که کارها و ایده‌های یه سری افراد مشخصی ارزش و اعتبار بیشتری داره نسبت به کارهای دیگه به, دی... به دیگران کارها و ایده های دیگران نه به این معنا که من معتقدم کسی که داره کار بیشتر میکنه قطعاً باید کارش و ایدههاش هاش ارزش بیشتری براش قائل شده زریب بیشتری باید بگیره ولی ما وضعیتی که داشتیم مثالش همین سایتی که دارم میزنم اینه که کسی که توی لاگ جلسات لاگ شرکت نمیکنه مشارکت فعال نداره کار اون اولویت داره بر کار دیگری یعنی ما که تو جلسات لاگ داریم شرکت میکنیم هی اصلا نمیدونه کسی دیگه ای هم داره روی سایت داره کار میکنه یه دفعه می سایت درست شد اومد بالا سایت خوبی اومد بالا ولی ما کلا بیرون از دایره چیز بودیم. ما اصلا چی میگن توی نظام ارباب رعیتی ما اصلا کلا شأنمون این نبوده که ما در جریان اتفاقی قرار بگیریم. بله؟ بله، بله از اینو زیاده. میشه صحبت کردیم، میشه میشه راحت بشیم صحبت کنیم یه ادم هماهنگی بوده میشه دفعه بعد اینو یاد بگیریم، دفعه بعد اینو تکرارش نکنیم. نشانهگان ایجاد اینجا ابداع نشده. والا فارسیش اینجوری میشه گفت یا نه. Not که شما هر صحبت دیگه هر ایده ای هر دیگه می بیاری صاف برمی دارم میارش که انگاری که ما اینجا توی لاگ یک نظام ارزشی لایت تغییر داریم که آقا یه زمان یکی گفته دموکراسی آقا خدا بیا مرزمون بنده خدای که این حرفو زد اون برای خودش گفته الان ما می خوایم حرف بزنیم باید بشیم ما حرف بزنیم ما باید بشینیم در مورد اتفاقات صحبت بکنیم نظر بدیم اینکه هر اتفاقی شما میخواهید ما یه زمانی اون بعد از سال 84 چون تصمیم گرفتون که برنامه‌نویسا اینجا میخوام بیان همدیگه ببینن پس ما دیگه جلسه رو تعطیل بکنیم آقا بگیم جلسه بزنیم هر کی میخواد به جلسه بزنیم درماش تصمیم گیری بکنیم ولی همین چیزایی نیست ما یه چیزی وجود داشته همین چیزی که اینجا تصمیم گرفتیم تا ابد انگار باید بره جلو نگاه به تیم اجرایی به عنوان خدمات دهنده که این استش ایشون داره برگزار میکنه همه انتظار دادن که ایشون برگزار بکنه استقای بیش از حد روی یک شخص که اینم که دیدیم این مورد 20م بود خلاصش بخوام بگم فلسفه اله لا... از فلسفش توهی شده تصمیمی خارج از ذاتات لاگ انجام میشه مشارکت در لاگ فاقد ارزشه اگه لازم باشه من اینو توضیح باید بدم مستاق میارم که چه جوری به جایی که از مشارکت یه نفری استقبال شده باشه تغییرش کردن اصلا به رسمیت نشافت اون رو ارتباطات شخصی سرقفلی به مراتب بیشتر از سلامت ارتباطات در تهلاگ همیت داره روابط شخصیشون مهمتر از اینه که ارتباط توی ارتباط ارگانیک داخل تحلک به چی شکلی شکل میگیره هرگز تمامی برای گفتگو و رفع اختلافات به شیوه شفاف وجود نداشته و ندارد تناسب میان قدرت تصمیم گیری و فعالیته. فعالیت در برگزاری روی ها وجود ندارد و سوالاتی که باید بهش پاسخ بدیم من فکر میکنم کسی که باید پاسخ بده بیشترین کسی که باید پاسخ بده که دستشون بوده. بعد هم دین توضیح بدن سابقه داشتن دیدن توضیح بدن که چه اتفاقاتی افتاد یه بخشش بله دنیا عوض شده اینا اینا مهمه چه توضیحات دیگه ای میشه داد احیانن که چرا تهلاگ از جذب نیروهای جدید آجزه و نیروهای جد... نوریهای فعالش رو هم از دست میده یه جنبندی بکنم نظر خودم رو بخوام بگم تهلاگ از دید من مال کسانیه که امروز براش دل می‌سوزن نه تو حرف بلکه تو عمل هر فعالیت بدون آسیب شناسی و شناخت اشتباحات گذشته منظوری که الان ما میخوایم خوام بشین تصمیم بگیریم که خب شما برو اون کارو بکن شما برو اون کارو بکن اگه ما نشسته باشیم آسیب شناسی نکرده باشیم که چی شده که تهلاقی رسیده به این نقطه بعد از 18 سال فعالیت کم نیست 18 سال فعالیت تجربه که تو اینجا 18 سال جمع شده ما بعد از 18 سال فعالیت اگه نتونیم بشین آسیب شناسی بکنیم که چرا رسیدیم به این نقطه محکومیم که همین اشتباهاتو چه بسا بدترش تکرار بکنیم حتی اگه امروز می از استفاده نکنید وگرنه من الان نمیخوام مسئولیتی به عهده بگیرم. خوام بدم یکی دیگه تفویضش بکنم. یه جوری این تفویضش نکنید پس فردا اگه خواستید بگید نتونید بگیدش. اون حقتون بخواید فرده بتونید فرده استفاده کنید. و نهایتاً تهلاک مشتمونه خروار جامعه نرم افصل آزاد است. صحبتی که اینجا داریم می کنیم، اگه تونستیم اینجا رو حل بکنیم، شاید بتونیم مشکل جامعه نرم افصل آزادم حل بکنیم. اگر اینجا رو نتونستیم حل بکنیم، امیدی به اینکه اون مشکله اون برام بشه نداریم. نهایتاً هم، تصمیمات امروز مائه که ما رو و آینده ما رو میسازه. تصمیم میگیریم که پس فردا بهش ازش خجالت نکشیم بشه افتخار بکنیم ببخشی که طولانی شد من بود بخش من یکم وای میسان میشه من قبلش یه صحبتی بکنم چون ساکت نشستم میشه برای باید حرف هم نه, نه, باید. نه من فقط یه چیز یعنی نمیخوام تند این قضاعت نارم من فقط قضیم اینه که اول مصطفی، من چند شبیه که بچه ها پیغام دارم که من با بیشتر حرف های مصطفی موافقم هم، فقط نمیدنم چرا این به من گارد داره. این در نظر این بیش، نه ازم ازم ازاگه نه ازن قاضی هر شخصی نکن نه شخصی نکن من گفتم من <تصفيق> مگه دارم میگم بیشتر حرفات قبول دارم خب داستان نه داستان. کاری به این ندارم جفتتون نسبت به هم دیگه گارد جفتتون یه ذره باید بیام پایتر من, با من فقط بحث اینه که اینجا جمع شدیم که از چهار تا الان هر چی بوده بوده تموم شده رفته خدا بیامرز حتن همون بند خوری که دموکراسی اونو نوشه خود به رحمت خدا رفت. و از الان ما میخوایم راجع به آینده صحبت بکنیم. هر چی بوده رو میتونیم بذاریم کنار، دموکراسی یا میتونیم بذاریم کنار، هر چی هست رو میتونیم بذاریم کنار. از الان تصمیم می‌گیریم که آینده میخوایم چه کار بکنیم. زیاد یه فلش بک نزنیم بقدیم درست ساختار رو درست بکنیم برای آینده. آره خب چون گفتی گذشته نسبت به این پاورپوینتی که ارائه دادی چه حالا این پرس هرچی یکی این که تحلاق ربطی به جامعه نرموزار آزاد نداره چون لینوکس یوزر گروپه خب میتونه آدمی جزو چیز نباشه اعتقاد به اون ایدالوژی ها نداشته باشه استفاده کننده از افزار آزاد باشه و توی تحلاق باشه خب پس اینکه بگی اینو درست میکنم اون درست میشه حرف بی ربطیه این یک دو اینکه نسبت به همین پریزنتیشنی که شما داشتی خود شما زمانی که رویداد دختران جامعه دختران داشت شکل گرفت که فاطمه تراشی اینا برگزار میکردن رامین بیشتر میتونه اینجا حرف بزنه همزمان روی اون رویداد اومدی رویداد برگزار کردی خرابش کردی نابود شد خب می ببین میشن ببین با ارجاع به یک چیز آدمایی که سابقه رو بدونن که کیا دارن فعالیت میکنن آه. و همون دیگه یعنی میگم اگر شما داری این لالایی رو واسه ما میخونی که نگاه به گذشته مخرب ترین کسی که تا الان جلوی فعالیت ها رو گرفته خودت بودی خب یه نکته دیگه چیزی که گفتی گفتی که چرا نما موثر نیستن ببخشید من با من آدمی که از سال 89 دارم میام فکر می کنم که موثرم دانیال موثر رامی مؤثره نمیتونی بگی موثر نیستیم خب و چرا آدم ها لاگ رو ترک میکنن چرا گزارش نمیکنن دغدغه دغ کوچیکه دا... دا... دا... دا... <تصفح> ام... انقدر کوچیک نیست هر بازی یه سری آدم ها اومدن همونجور که یه زمانی شهرود خیلی خوب بود شیراز لگ الان خوبه تبریز تاکو داریم آدم میرن مشد میرن میان فعالیت میکنن پس این جمله ای که اولش گفتی کی چرا اینجوری هستن جمله از اساس به نظر من غلط دو دو دو دو دو... که گفته او چرا اه... چیزه آدم مؤثر نیستن و دو, دو تا اسلاید اولش خب. بعد اه... گفتی که یه نکته دیگه که هی داریم که اعضای لاگ تصمیم گیرنده های لاگ حق عضویت پرداخت نمی کنیم. ما شخصیت حقوقی هم نیستیم من یه بار بحث شخصیت حقوقی رو باد کردم خب فعالیت سنفی هم نمی کنیم یک سری آدمیم داریم فعالیت می کنیم آدم ها بیان مورد اطمینان بودن به نفع خودشون برداشت شخصی کردن منتشر کردن و منشن نکردن ها رو خب بحث قبلیمون بحث قبلیمون توی توییتر ما که آره. ما حالا چیزه؟ ما بحثی من یه بحثی کرد حالا میگه شخصی نکنی اسم نمید آره, آره. بعد تلاش های واسه کرونا توی برگزار کردن لاک به صورت آنلاین شد جیتسی و بیگ باتن و خود منم هم سرور گرفتم تلاش کردم دیدیم جواب نمیده راستین چپچینش مشکل داره اینترنت آره آی وی بی وید اصلا ایش کاری خو و عزیزانی هستن که اینا رو نمی بینن و سفت جمله. من با جمله سفت مشکل دارم که بگی این نیست و بخوای روش نتیجه گیری کنی من این حرفای بود که به نظرم اومد بگم در رابطه با بحث اون آیه تشکری اون بحث دولتی شدن بحث مختلف کاملا آدم ها تلاششون رو آدم ها میان تلاششون رو تو برهای مختلف یا کامیونیتی پشتشون در میاد، اونوری هم ادامه میدن یا در نمیاد اون فعالیت شکست می‌خوره. ما خودمون جزو فعالیتی که داشتیم سلام دنیا رو داشتیم. موفق نبود به خاطر اینکه کامیونیتی رقवटी بهش نشون نداد. خب و اونم یه تلاش بود آدمو دوست نداری فرکش کن. نمیتونم بگم آدمی به این جنبش آزادی نرم افزار اعتقاد داره، اینو بلد نباشه خودش. دوست نداری فورکش کن کامیونیتی آره؟ من آیبه خم کارش کنم فا فورکش میکنه. کل نه نه فعالیت هم است فعالیت. هر فعالیتی کلی دارم میگم اگر کسی با یک رواندی مخالفه خب میت سانده شوند بده اه چیز... منافتم مال من نکش دقیقا تو همینه خب تو یه فعالیتی رو توی جامعه انجام میدی آدم باهات با هات حال بکنن دنبالت راه میان همونجور که خود من SFUG شریف رو را انداختم با من مسود صد نژاد SFD که برگزار شد FSUG قسمتی کمک کرد مسود بود دیگه خو. دانشگاه هم رقبتی بهش نشون نداد کنسل شد خو. شما یه اکتیویتی انجام میدی اگر کمیونیتی دوست داشت با همراه میشه کردیت کسب میکنی مریج میداری و توی این داستان میتونی بیای کارهای بعدی رو انجام بدی اگر کمیونیتی پس میزنه شاید باید توی روی کرد خودتی تغییری ایجاد بکنی شاید توی اون نوع فعالیتی که میخوای انجام بدی چیز داشته باشی، تغییری داشته باشی و اینم هم توی همین بحثم دارم همین رو میگم اگر که خیلی فکر میکنی یک فعالیتی که میاری آدم ها چرا نمیان زیر بالو پرشو بگیرن که انجام بشه چون قرار نیست کسی بیاد انجامش بده خودت باید انجام بدی هم فکرات بیاد انجام بده کامیونیتی علاقه‌مند بود ادامش میده علاقه‌مند نبودم تموم میشه از این ور دور بزنیم میگه فرشید و... من همین دسته را آید <تصفيق> یه چیزی فقط <متبال> من تو پرانتز آره ممنون کدار... برای اینکه داریم راحت صحبت میکنیم آره. <متصفيق> فکر کنم بحثه که میشه هیچ نتیجه دا. ای نداریم و آره هیچ آره. نتیجه ای نداره ببین به نظر ببین من یه چیزی بگم ببخشید من چون این دستم بود و چیز کردم کاملا کودتا میکنم اینا گند دست خودم آره. آره آقا به نظر من <تصفيق> اصلا ببین من من اصلا خوشحالم که یه همچین جلسه ای برگزار شده الان افراد نشستن اینجا دارن صحبتاشونو میکنن راحت هم صحبت میکنن و به نظر من اصلا 10 تا از این جلسه ها داشته باشیم هیچ به با کسی بر نمیخوره که آدمایی هستی که همه همون عاقل این بالغ میتونیم بشینیم فکر کنیم صحبت کنیم بشیم صحبت کنیم یعنی عجله نداشته باشیم که وای الان باید نتیجه بگیریم همین آخر امروز ما که آقا بگیم که آقا آخر امروز به این نتیجه رسیدیم که آره هفته دیگه هم دوباره بیایم یا سه روز دیگه دوباره بیایم همینجا بشینیم صحبت کنیم به نظر ببینید صحبت‌ها رو دوباره تکرار نکنیم دیگه صحبت‌ها رو بریم به شرطی اینکه رویه رو به جلو داشته باشیم آره اوکی آره نم میگم میگیم رویه رو به جلو داشته باشیم خب بقیام آره رویه رو به جلو داشته باشیم ولی ممکنه تا آخر امروز همه مشکلات حل نشه که ما انتظار هم نداریم که تا آخر امروز مشکل ترتیب بشه آره, آره. آره. آره. آره. آره. ستفا. من گفتم شاید مثلا مصطفی نظرش باشه که رواه کلی جلسات کلند دیگه بشه یعنی اصلا از این حالت به حالت دیگه تبدیل بشه او... من من راجع به اجراش صحبت با هم با هم, هم حرف نزنید می‌خوام این نقطه برسیم من حرفی که دو نفر نمیتونن جمع تصمیج جلسات تصمیج می‌داریم مش می‌داریم آقا واسه من ببین شما دوتا تا همدیگر رو می‌شناسین حالا یه پیشینه‌ای با هم دارین که ما توش نیستیم من نمیدونم. بلاخره به نظر میرسه به عنوان یه سیفم شخصی خب که اینجا وای یه داستانی هست. آره داستان من فکر کنم که آره با همدیگه چیز نکنیم. به قدیم ارجان ندید که چی شده. اینجا یه صحبتی آره. صحبت را آره. بذار فرشید تو نوات. آقاً فرشید داشتیم. آقاً این زرسته با جا آینده است. خب. خب. من فرشید هست. بخب. شب آقا اجازه بدید این دوستمونم صحبت بکنم شما تعیین میکنه که خوب که در آینده من اینجراسمه دوست جم دوستا در آینده من کردم که از الان به بعد چه کاری میخوایم بکنیم من هماهنگ هم کردم ببینید تا چطور که از میخوام در آینده کار کنیم به نظرم خیلی مربوط میشه به اینکه آقا قد آقا ما یه صحبتی آقا اجتماعی که اصلا سال پیش و نکردیم آقا این دوستمون هم صحبت بکنن چند چند راحت آروه فرشیتو آروه دوریمه من اندیشه کردم دور من فرشی هستم بهنام دانیال رامین و آقای فریدونی من نمی‌شناسن شاید بقیه دوستان ندونن من کیم من حالا تبلیغ سایت نکنیم سه تجربه سه تا داشتم مدیریت و تشکیل سه تا لگوی ارومیه و تفرش رو و با رفتن من متاسفانه، نه که من منحلش کنم، نتونستن کار کنم و منحل شد. من برای این مشکل رفتم و تحقیق کردم ریک موئن اگر اجتما نکنم اسمش رو، شاید بشناسید توی انقلاب سنتی، میگم، اشترم بگم، انقلاب مطباز ویدیوی که انقلاب مطباز بود، اون، ریک یکی از اون افرادی بود که رفتن بیل رو یقه کردن پول ویندوز رو بگیرن. ریک موئن یک یک آ... نمیدونم شد یک مستندی داره لینوکس یوزرز گروپ هاو تو سایت tdlp.org اگر گراشته‌م کنم. من ترجمه کردم این رو سال 93 حالا نمیدونم دوستان دیدن یا نه تو اون چهار تا هدف رو ذکر میکنه که لاک چهار تا هدف رو باید دنبال کنه انگلیسی ها ندارم من متاسفانه من فارسی شو ذکر میکنم حمایت، آموزش پشتیبانی و همگانی سازی که چهار تا هدف رو باید دنبال کنه دوست سایت بس، بس، بس سایت, سایت محتوی باز یا اپن کانتنت دات آر اونجا هستش توی هفتش قسمت قسمت اول دوم و راهنمای کاربری like. لاگ راهنمای لاگ like. این چهار تا هدف رو دنبال میکنه و من فکر می‌کنم اگر یه مقدار بالاتر بیم نگاه کنیم به موضوع اگر از این چهار هدف شروع کنیم بالاخره لاگ یه جایی اسپش‌تر اومده دیگه یک لاگ لاگ لاگ لینوکس یوزرز گروپ هاوتو اسم مستندشه اساسنامه نیست راهنمای هاو راه هاوتوه اساسنامه نیست که مثلا کلیات دیگه کلیات باید نباید هاست نه قانون که فلانی مدیر فلانی ناظر گفتم چهار تا هدف رو دنبال میکنم نمیتونم چه... کلش رو بگم چهار تا هدف کلی رو بیانید. همین چهار تا رو خواستم کلیات رو بگم اگه گ داشتید این وری ببریم بحث و حمایت حمایت از لینوکس و احتمالا نرم افزار آزاد تعلیم و تربیت یا همون آموزش educationشن رو تجر تربیت پشتیبانی. و همگانی سازی کاری که الان نشستیم همگانی سازی داریم میکنیم و اجتماعی شدن این چهار تا هدف رو دنبال میکنه یک سازمان غیر انتفاعی هم محسوب میشه لاگ و طبق تحلیلی که من از این مستند دارم نه اینکه نوشته باشه حتی میشه بحث درام هم داشت نه تو قالب لاک بزرزوی در حرفاً تنموشه مثلاً فلان شرکت کار آزاد میکنه، کار اوپن سورس میکنه، بیاد و توی لاگ بگه من این کار رو میکنم، نیرو لازم دارم. بیان استخدام بشید تو برند من، یک برند من یا فلان آموزشگاه فلان مبحث و درس میده، بیاد تبلیغ بکنه خودش رو، بگه یا فلان یا اصن اصلا خودم اصن اصلا خودم بگم. فلان سایت نویسنده نیاز داره، میگه بیای نویس آره تو مثلا این کارا میشه کتکر فقط حتما چیز نباشه محرزا تمام شد. زیاده گرد. حدی رضا. خیلی که ساعت بودم. خیلی که ساعت من بگید. که قد نمید. من سلام. من داری دلان از اینجا. عقبی حال میکنم. به من میگم من خودم 96 بود که اومدم توی لاگ او الان, الان نمیرسه اوکی <تصفيق> می okay. <تصفيق> میگم من الان صدا میاد تاانتر اوکییه okay. خب میگم من 96 بود که اومدم توی لاگ بعد اتفاقی که افتاد میدیدم تنها جلسات مختلف رو می اومدم تا اسنپ اکسپرس شد و به بچه ها گفتم رامینم بود اونجا جلسه من گفتم گفتم که اینکه افراد میانو میرن خب یه سری چیزا یاد میگیرن و دیگه هم کاری به جریان خود لاگ ندارن اینکه گذاری خود لاگ جریانشیه چیه و من خودم اینجوری اینو تشخیصش اینجوری دادم هایی رو داره لاگ که با ارزشهای جاممون یه جوری در تضاد عموم مردم اون مردم نمیپسن میگه خب من بیام تو این که چی برای من چی داره من میگم اگر ما بخواییم واقع این جریانه رو یه جوری بهترش کنیم با این ظرفیتی که ایجاد شده خب سال 80 و مثلا دعیه هشتاد نبوده ولی این ظرفیت الان هست خیلی هستن که تو این جمع مثلا دیولوپر هم بین خودمون خیلی که میان توی جلسات لاک شرکت میکنن بالاخره یارو مثلا مارکتینگ طرف مثلا دیولوپر اینا میتونن این ظرفیت هایی هست که وجود داره. ما مو هم تو اجتماع خودمون داریم چیزهایی میبینیم که میتونیم خودمون رو اونا مثلا کار کنیم مثلا برای بحث مثلا پابلیک ترانسپورته مثلا حمل نقل عمومی آقا اینا چیزایی که برای عموم مردمه چه بهتر که دست همچین انجامنی بیاد درست بشه بره جلو اینا رو بشینیم آقا روش فکر کنیم ایده بدیم آنالیز کنیم بعد خب بگیم اینقدرم ظرفیت داریم به اینقدرم نیاز داریم خب اینجا دوره میایم چراخ پیدا می روی اینکه مثلا فلان رول فلان چیز رو ما میخوایم این عرضش ها رو برای طرف خلق میکنه پس برای طرف میارزه که مثلا بگی از فلان تایم هم بزنم بیام روی این پروژه سرمگذاری کنم تایمم رو بذارم به جانی که مثلا اون ساعت رو توی شرکت باشم یا جایی من میام فعالیت اولیش تو این عرصه ولی خب این چه خلق ارزشی برای من داره اینم بعد درآمدش فکر بشه خب ما انجامن که الان دور هم هستیم خوب هر کسی توییته خودش که هست اینا رو فکر کنه ببره جلو آقا من خب من توی بحث همین بیزینسی که هیچ ایده‌ای ندارم ولی خب ایشون شاید باشه کسایی دیگه باشن میدونن این خلق ارزش ارزشی که خلق میشه چی جوری هست و از این ظرفیت میتونن استفاده کن من سلام؟, سلام خوبه پس سرام تا اون ته میبسه خوبه آره من چیزم سرام خوشبختانه نسبتاً بلنده ممنونم که اینجا به خالی کردیم اینجور رضاهم که بقیه هم سرامو بشنبن خب من اولین چیزی که خیلی به نظرم همیشه حیاتی بوده تا یک زمانی در لاج اتفاق میافتاد و حالا به واسفتی چیزهای مختلف یعنی اگر بیرایم لاڈ با یک سیستم دینامیکی در نظر بگیویم که کلی علمان توی این سیستم هستند و من با هم تعامل میکنند یه محیطی هم هست که این سیستم اون توه و اون محیط هم رفته تعامل با این سیستمه همه چیز دست به دست هم داد که یک اتفاقی از یک جایی به بعد دیره تو لاڈ نیفته خوب. و اون هم ثبت قابل جستجو و متنیه همه اتفاقات. تا زمانی که میلینگ لیست داشتیم این اتفاق داشت میافتاد خب نه بذار بدیم بفهم یکی از واخواش میلینگ لیست تعلیق می‌ذارید تو آها از آهنگر چیزم پوشش هست اینو که به نظرم اینو در نظر بگیریم یک قسمتمون انتقال تجربی که حالا آقای آهنگرها باجوب صحبت کرد خب اصلا از طریق آدم ها اتفاق نمیفته از طریق سیستم ها اتفاق میفته خب حالا یک فیچ به حال این بکنیم حالا من الان نمیدونم که فکر رو ملینیز خیلی دیگه الان از اینجا سم فیچ می اینجا الان دیگه حالا حوصله ملینیز چه کردن داشته باشه آره، مثلاً دیستورس بزنه خوبیه، حالا بگذرمیم، من الان دنباله برای حل نیستم، فقط میخوام چند تا جواب به صحبت هایشون بدم و به یک جواب به چیزی که تولیه گفت بدم و همین جمع جم کنم راجع به کرونا و تصمیم هایی که گرفته شد، اینا من مشخصاً بودم توی اون گروه تصویم دیوان و تو گروه سرور، حداقل تا دو سال پیش اون یکی اکانیت داده برمو عملا بستم یعنی به ویدی نوار کنین اون یکی اکراندم آخرین فعالیت رو و حدودن مال دو سال پیشه خب فقط لاجین میکنم توش چیز نشه دیلیت نشه همین خب آخرین پیامی که من توی اون چیز گذاشتم تقریباً مال دو سال پیشه تا اون موقع من بودم توی این گروه ها یعنی هم تو گروه همه هنگی لاج بودم هم توی گروه کور بودم هم توی گروه چیز بودم سر بودم فقط جا به جایی نبود بعدش رو, رو مون شد زیر ساخته تهران لاک آره هست الوشی الوشی باقره باقره بوده بوده. آره هست ولی هیچ نیست همه بفته پای پایین ماهی نبود لایبوگو کنید یه مسئله که من را اصلا یه مسئله اینجوری که داره بهش ارجاع میده آه آه اول همه لیست بود بعد الا بگذاریم. من میگم یعنی من توی اینا بودم. خب صحبت رو دیدم تقریبا همه رو. خب حالا بچه‌ها قدیمی توان میدونن اونایی هم که من میشناسن میدونن من عادت دارم لارج میکنم. از هر لحظه‌ای که نبودم تا اون لحظه‌ای که الانم میخونم. خب بنابراین همین میتونم با اطمینان بدم تا زمانی که بودم همه رو خوندم و همه صحبت ها رو دیدم شنیدم میدونم چه خبره. کرونا که شد بعد از این که حالا میل سرورش اومد پایین یک اتفاق دیگه هم مفتاد اون رو یادم نیست چی بود؟ اما این صحبت راجع به برگذاری آنلاین شد سه ماه ما تو سر خودمون زدیم و تلاش کردیم و به نتیجه نرسید خب واقعا سه ماه روزی نبود من اون روحو باز نکنم حداقل دقیقل در پونزه تا پیام راجعیم این چه کار کنیم نبینم. خب اینا همین الان میگم آه چند نظر بخشید من نور میخوام کسایی که حالا اومدن تلاش کردن برای برگذاری خود دانیال بود خانم تواشیبه که حالا تولایی گفت تلاش برای برگذاری خب یعنی زور خودشون رو زدن بالاخره حالا نتونستن دیگه اونو باید بریم بریم شدار بکرم نتونستن ولی زور خودشون رو زدن و در اون تایم منم بودم اینو بگم برای برگزاری آنلاین حتی یادمه که گفتم آقا اگر سرور دارید ادمین من انجام میدم یادت تو بعده. چند بار گفتم که اجر سرویسی میخاید بیارید چون بالا آوردن برخی از این سر مثلا جیتسی اون زمان بالا آوردنش واقعا عذاب بود یادم من بولو گفتیم؟ بی آره شو بیگو لغت هم میخوایم گفتیم به یادشیم به رو بودیم آره بیگو لغت هم که اصلا نیسته عجیب بود سه چهار تا سه و باید نگران نشه دو عجیب نیست اینو میخوام بگم که آره یعنی تلاشمونو کردیم نشد به هر دلیلی خب حالا و راجع یه پرانتز من باز میتونم در حد یک دقیقه یا کمتر راجع به تی و نوادانو خب داستان از آدم که خودمون بودیم شروع شد خب یعنی از بیوون کسی نایمد بگه فلان، خب حتی به نوع آفیش اولین صحبت هاشم در جلسه‌های لارج شد دقیقا خودم هم کردم خب. اینجوری نبوده که فکر کنیم یکی از بیوون اومده میخواسته فلان کنه بهمان کنه خودمون بودیم خب اون که شما میدید دولتی شدن بعدم میام من با صحبت میکنم می دیدم کلا متصربا شده بود و اجازه صحبت به هیچ کی داده نشود تو اون فضا اونقدر التهابی جاشو تیش داشت نتونست حرف بزنه من چه تصمیمی گرفتم خصوصی حرف بزنم دانیال لادشو فقط دو ساعت من با دانیال خصوصی حرف زدم با چی صحبت با خیلی ها من صحبت کردم اون ولی خصوصی صحبت کردم نمی تو فضای عمومی دلیل هم داشتم چون خیلی ملتهب بود فضا می اومدم فقط اوضاع بهتر می شد ولی میخوام بگم اونجا شما رفتی نبوده و من سر این بحث دارم بعد دوست داشتید خارج از این جلسه صحبت میکنیم بحث کسیسی نباشه بحث عمومی باشه آره شد واجبه این که چرا هم شما رفتی هم مال برخی دیده از دوستانم هم شما بتوندن که این چرخشه چرا اتفاق نمیفته من نظر شخصی ما میگم ما تا الانی که من اینجا نشستم معتقدم به یه جمله از سال نود و تقریباً پنج شیش این جمله رو دابن می جم و هشترس حتی نمی بده از من پرست چرا این جمله رو می جی جزی یه نفر این بود, بود. ما چیز باید. یه خواهشی کنم چون خیلی دارم ازیت می شن دبید. یک ساعت راجب این جمله داری باش توضیح میدی و آخرش سه اولو که جمله اینه بعد توضیح رو دار راجبش که ت ما جامعه نداریم ما چیزی به نام جامعه نداریم خب چه از ن جامعه شناسی نگاه کنیم چ از نره روان شناسی نراه کنیم چه از نراه حالا تعیف مستفاده کنم تعیف چیزیه یه مقدار سطح بالاتری تویه. ما چیزی به نام جامعه در ایوان نداریم اجتماع داریم ما گروه داریم ما جامعه نداریم. توی تمام تعاریفی که ما از جامعه داریم یک المان وجود دارد به نام تعامل کامیونیتیشن اصلا کامیونیتی از کامیونیتی کامیونیتی هم ایشان خب ما جامعه نداریم صحبت کردن با همدیگه رو یاد نگرفتیم این دلایل تربیتی هم ندارم رفت به انجام نداره کلا جامعه ایوانی یک کتابی هست به نام ایوان جامعه کوتاه‌مدت بنجو مقالات توصی می کنم بخونیم هممون جواب خیلی از چراهامون داده میشه خب چرا فلان رفتارو داریم چرا مثلا جامعه ایران فقط تلال اینجوری نیست چرا جامعه ایران قهرمان است قهرمان محور است خب این اونجا جوابش داده شده چرا دلایل دا تاریخی داشته 2000 سال تاریخچه است خب اما یک مشکل هم ما داریم اونم اینه چه نمیدونم، یه سوال می‌پرستم فقط دستتون رو بالا بدوید کیا کتاب طرز و خانم دکتر کابالی دوک رو خوندن؟ یا راجب شنیدن؟ طرز فکر روشت چی؟ خودت مزدورم جرد اه، <تصفح> نایس، خب توی اون؟ طرز فکر روشت؟ آره همونه، طرز فکر روشت و طرز فکر ثابت خب، ما، به هر دلیلی چی؟ طرز فکر؟ طرز فکر روشت؟ تمام خوندی؟ نه. نه خوندی ما در ایران و به تو به در همین جای که الان هستیم مخصوصاً ادمای فنی مهندسی این هم دلیل وابان شناختی دارد مالو و اشتام و اونای که چند ندوند نه وابان شناسی شناختی دارد میخونم الان خب دلیل حتی وابان شناسی هم دارد که چه این اتفاق میفته بین به فنی بیشتر خب طرز فکر به رشد نداریم تازه فکر کرده اون ثابته از شکست می از اینکه اشتباه کنیم میترسیم از اینکه یک اتفاق بیفته و وا... وای فلان الان دستمون میلرزه خب و این اگر بریم به این سم به عنوان یک سازمان من وقتی میگم سازمان منظم یک سیستمه یک اینکه اورگانایزیشنال سرف شده فلان نیست به عنوان یک سازمان در خودمون طرز فکر رشد ایجاد کنیم و سازمانمون روش طرز فکر و روش داشته باشد خیلی از مسائل حل می شود خب اینو من باید چه؟ سه تا مورد دیده مونده سه <تصفح> <تصفح> خب. به طور خاص اون بحث سیاسی و من هم سوال دارم کی بود؟ چی بود؟, بود؟ کجا بود؟ این واسه من سواله؟ خوب. اتفاق مهمه من نمیخوام دوباره این اتفاق بیفته من نمیخوام دوباره این اتفاق بیفته و اگر دوباره این اتفاق بیفته جوه دیدهی برخورد میکنم خب هزینهش به پای من میره خب که وقتی میرم یه جا به من میدن مثلا تو به عنوان فریساکتر ادروکیت خب چه فعالیت های داشتی میدم من یک سال و نیم جزو بودم بودم جان لارد بودم جزو پای من راهمی آلا؟ میگن آقا ما دو در این روشن باشه. ای باشه من, من میگم چی بود چی بود چه کلامی نیست اگر اومدن متن بیانیه رو نوشتن امضا کردن و گفتن که ایشون بره منتشر بکنه اول سوالی سوال اینه <تصفيق> نه، سویش نیست بحث اینه که تصمیمات خودسرانه گرفته شده درست درست این باشه که این من چرا فوش تسلی درش دارش دارش خوب برای گفتن این آره و صحبتی که اطلا شما کردی من اینو چون واجب جامعه نام آزاد با توجه به چیزی که علی گفت خب من فعلا فقط اینو به میگم این ما بزرگ چیم چون بعد میاد خب من همونجام تو اون جلسه این رو رفتم که میشود بزرگ شد و بلا سرد نیاد خب روش داره روش رو یاد رو بجویم خب و من یه نراب نظرمونم چیتایی چی که میخواستم اینو رفتم خود درن آقا یک نگاه چیز نویشتون آقا خالیه. چی؟ یه پوییتر چی؟ آها. بدیم حفظ کنیم؟ نه یه دور, بيه دور, بيه دور, بيه دور بيه بعدم آره دو تمام, تمام میشه یه صحبت کنم باز حرفای جدید جدید داشته, داشته, داشته باشه مربوط به همین داستان آره من چون مربوط به همین داستانه دقیقا ببین آره الان من فکر میکنم که یه جایی یه ناهماهنگی که نه یه عدم درک متقابلی هرچند خیلی بد فارسیشو پیدا نکردم یا عدم درک متقابلی رخ داده این صحبتی که الان داره میکنه مثلا آهنگرها داره صحبت میکنه میگه که برای این قضیه اتفاقی نیفتاده برای آنلاین و ها بعد از اون طرف تو داره میگه که نه من اونجا بودم و این اتفاق افتاده آه. اوکی تو داری درست میگی خب ولی حالا من برداشتی که دارم اینه که تو برداشتی که کردی از اون حرف این بوده که از روی خوبستی نت اتفاق نیافتاده نه مساله این نیست مسئله که یک, س... یک عالم عالمه اتفاق هم ممکنه اونجا افتاده باشه اون آگاهی رسانیه راجبش نشده یعنی نم. تو میدونی که این اتفاق افتاده ولی 90 درصد افرادی که اینجا هستن نمیدونن راهکارش چیه به نظر من راهکارش اینه که خواه. یه سیستم شفافی داشته باشیم من خیلی موافقم که بریم سمت همون دیسکورس بیر... و اینا حداقل همه مکاتباتمون برای همه قابل دیدن باشه من به نظرم این یه راهکار میتونه باشه برای که حداقل شفافیت رو داشته باشیم oh no, okay. خوبصه یعنی تینتت خبیصه خوبصه تینت فارسیه. میگم گفتم فارسیشو نکردم دیگه این بلد نیستم این این داری صحبت این داستانه خیلی زیادی مطرحش شده و همش خیلی اتفاقا درسته یعنی این عدم تعامله گردش نداشتن تجرباتی که قبلا داشتیم و خیلی چیزهای دیگه درسته روی اون اصلا زیاد شکی وجود نداره ولی این جلسه رو جمع شدیم یعنی اصلا دستور شما هر جلسه ای که می تشریف ببرید بعد ببینید دستور جلسه چی بوده حالا اینجا دیشتوری بوده من خودم دستور جلسه رو انتخاب کردم ببخشید جلسه بعد شما دستور جلسه رو چیز یه بذاری و دور هم جمع بشیم هیچ منم میام ولی دستور این جلسه برای این بوده که برای جلسه بعد و جلسات بعدی لاک روند رو به چه نحوی تغییر بدهیم و لطفا خواهش میکنم اجرایی صحبت کنیم یعنی بگی که آه از جلسه بعد ما اصلا, ت... اصلا تو چه پریودی برگزار بکنیم دو هفته یه بار یک ماه یه بار آیا ارائه داشته باشیم، آیا صرفا دور همین باشه، آیا برنامه جانبی هم توی لایک داشته باشیم، آیا مثلا جمعه‌ها بریم دروانگاه آه‌نگرا یا نریم، اینا رو بشین با هم صحبت بکنیم و به اجرا برسیم. این خواهش من از شما اینه. یعنی بریم به سمت اجرا، تمام مشکلاتی که گفتیم حتی مشکلاتی که هر گفت همش درسته. ولی یه ذره خواهش می‌کنم که اجرایی باشه. چون ما این جلسه رو برگزار کردیم که دیگه رامین فقط نره همه جا رو هماییم بکنه. بچه که جدید تر اومدن ملحق بشن و کارها رو به عهده بگیرن و برن جلو یه اجرایی تر صحبت بکنیم بله. که با هم یه تفاهم برسیم و اجراییش بکنیم آره صحبت، اجرایی صحبت نماظه هم بگم خب، این فضایف که حالا دوش درامین هست یا خود بنام جان و هر کسی دیگهی که الان جریان را لاگو دستش گرفته مثلا میگه الان من تو این بخش که دارم چیز میکنم یه نفر نیاز دارم دو نفر نیاز دارم وظایف‌ها رو بگه نه. هر کی دوستش بذرید خیلی کُلیدره حالا توی ادامه ماجرا تو ما اومدیم از 84 این میده خب آقا اونجرم آقا چرا ما نمیریم تو اوکی میزنون نمیریم تو سلام سالم مثلا دو هفته لایک به عنوان مثلا حالا هر اسمی میخوای بذاری کارگروه میخوای بذاری زیرگروه میخوای آنه مادر رو بچاییکه با طرف دفتر الان ما هم صحبت کنیم چیزی که تو الان یعنی ما اینجا جمع نشدیم که وظایفی که تو الان رامین و من و و اینا انجام میدادین تقسیم کنیم اول یک باز تعریفی بکنی با توجه به شرایط الان چون دیدید می‌بینید الان اطلاعیه بیش از 100 نفر داریم در این شرکت اینو نداشتیم نفر الان بیش از 100 نفر داریم میام اوکی ما برای این 100 نفر چه تروری که بعد ببینیم تازه باره دا رو بعد چه کار بکنیم اونایی که اصلا دیدین چی رو چه کار بکنیم آیا باید دوتا تا اتاق داشته باشیم چه کار کنیم اینا رو درگیر بکنی؟ این بکنیم بار کنیم توی بود راجع به اینا صحبت کنید آقا ما جایی صحبت کردید میدونیم که نیاز به داریدونه اوکی ولی از آن جوام گرفتیم رو توش چیکار کنید آقا من راجع... استاد ما از جای صحبت کردید چون ما تازه وارد هستیم و اجازه صحبت کردیم, <تصفح> صحبت کردیم. من یادمه که مخلصا اونها رو... <تصفح> تویت میکردن که مثلا کسی میخواد تو این جلسه ارائه بده یا نه آره فراخوانی دادن کاری که میتونید بکنید حالا چه مثلا در سطح خیلی مثلا اپ صدای چه در سطح خیلی پیشرفته هر کسی ارائه داره بیاد مثلا ایمیل بزنه به تل تهلا... اگه نداشید ایرای کسی نبودش جلسه دور هم می‌خوشه خب پس یه استپ برگردیم عقب‌تر این راجع به اینه که چهجوری ایرای دهنده رو جذب کنیم نه. ببین اول یه چیزی بعد روی شکل جلسه اصلا به تفاهم برسیم آره. بعد بریم مثلا اینکه حالا ایرای دهنده حالا راجع به اینم شد من یه نکته‌ای یادم افتاد راجع به جذب ارای دهنده آره مربوط به همین باشه حالا راجع به شکل جلسه نه نه اصلا کلا زیر ساخت تهلاقی ما یه سری ایمیل داریم بعد این ایمیلا خب به یه سری افراد خاصی میرسه این به نظر من باز باقی او دهام... اون چیز آره غیر شهر اون هم میشه صحبت کرد اصلا این این رو سیستم رو ببریم روی یه چیز عمومی مثل همون دیسکورس یا حالا هر چیز دیگه این هست این هم باید صحبت کنیم فعلا رو جلسه به تفاهم برسیم دوستان بفرمایم بچو بچو چیزی که صحبت شد و چیزایی که من شنیدم باگ اصلیمون این هماهنگی است یعنی یه گروه یه گروه تلگرامیه توی چیداک مسابقه توی تلگرام یه گروهی که چند نفر نم 60 نفر هفتاد نفر بقیه نیستن همین قضیه ای که میگن این بیانیه سیاسی رو چرا زدید خب تو اون گروه بحث شدش و ما هم نزدیم کل بچه های لاگ تهران زدیم جمعی ولی مثلا یا مثلا همین صحبتی که آیه فریدونی میگه که میگه من توی خصوصی بهشون توضیح میدادم خب منی که توی پابلیک دارم میبینم مثلا یه آدم بدنام اومده توی اون گروه بدنام حالا نگیم یه آدمی که سابقه سیاسی داره اومده توی اون گروه من من چرا نباید توضیح بشم برای لایک هم همین مشکل داره پیش میاد یه جای یه دی دارم بحث میکنن تصمیم میگیرن یه دی ایگنور میشن یه دی نیستن تصمیم بگیرن. به خاطر همین داره سو تفاهمه پیش میاد آره و اینکه تا الان اینو داشتیم که نگاه به گذشته داشتیم که آقا لاگ ساختارش اینه یه اساسنامه اولیه نوشته شده بر اساس این داریم میریم جلو. یا مثلا یه جا یادم یه صحبتی شدهش گفتن که مثلا چرا تو لاگ این کار رو نکنیم گفتن خب لاگاه خارجی هم این کارو نمیکنن. با اصلا اینا دلیل نمیشه حالا قبل لاگ چی بوده؟ الان چی بوده؟ چرا موتثارت نزنیم تو لاگ این موضوع به خاطر این به نظرم اینا رو باید در نظر بگیریم شمال یه شمال روال درست درستی براش ایجاد کنیم و اینکه همه توش باشن الان چیزی که هستش مشکل اصلی هم که هستش مثلا برای چند تا آبدیت های سایت هم خاطر تون مثلا یکی میزد و بایدیم یکی دیگه مثلا تایید کنه که مرج بشینه بالا دسترسی پخش نشده درست آلا یا کسایی هستن که بیزیند. دار بیزیه خب ما با بارو بندازیم رو دوشش و ادامه بدیم چون سر این که قدیمیه. دمش تا تو الان هر کاری کرده به نظرم این یه صفحه تو لایک درست کنیم چه کسایی تو الان برگزار کردن که اسمشون هم بمونه. اینا زحمت کشیدن بدنه لایک رو ساختن. و اینکه ا ارائه رو میگید که ارائه شاید اشتباه باشه من چیزی که اول گفتم گفتم یه ارائه بود طرف مگه اونسیبل من تو کلش نفهمیدم چی داره میگه ولی بعد رفتم خوندم آره آموزشگاه نیستش طرف بیاد تو مثلا نیم ساعت یا 25 دقیقه این سری یه رو بود 25 دقیقه بود چرا بود تو اون 25 دقیقه بخواد کل مطلب منتقل کنه به شما آموزشگاه میره طرف 100 ساعت میره بعدم میگن آقا برو خودت بخون یاد بگیر نه من واسه آره. به راه کردن کسی هستش که حالا شما میگی من واراندی میکنم خودم ریسرچ میکنم اوکی بهش میرسم ولی بعضی بعضی ها, ها میگن مثلا میاد این میگه مثلا این داره یه میگه داره اومده صحبت میکنه ویندوز و لینوکس جامعه لینوکس و ویندوز بیشتره پس ویندوز بهتره خب یالا بصلا... آره. مثلا امی... امی... که افتاده بعد نگاه کن همه همه ادمی اینجا نشست همین شما بعد انجام میدید صادقانه اینکه میاد اونجا یکی هست مثلا من دیدم 18 سالش باشه 19 سالش باشه خب دفعه میبینی از اون مسیری که باید باشه به نظر من گمراه میشه من این نظرم اینه <تصفيق> میدونم شما که میدونید داره اشتباه میگه میرفتی بالا کاری که دانیال کرد بره. طرف داشت اشتباه می من منم اصلا عذاب وجدان دارم چرا نرفتم اونجا ارتف 4 بزنم ببندم راهشو <تصفيق> <تصفيق> چون داشت چرت میگفت اصلا <تصفيق> حالا <صحب> اون آره وارد نشیم که من به خونه شستم ولی اه باید ببین ما باید خودمون میرفتیم اون بالا اقدام میکردیم این که نکردیم اینم پچشه پس یکی برای این کار وجود داره اگه اشتباه گفت کسی صحبتی داره؟ یه نوش در مورد این اراهی که گفتید مثلا یه ناراحت می... مترجمه میشن دل سرد میشن میرن خیلی منطقیه کلن نمیتونیم همه رو پوشش بدیم این یعنی بحثی نبود روش باشه یه ارائه میشه یک نفر به دردش نمیخوره دو نفر به دردش میخوره یه نفرم میشنب و میره نه به دردش میخور نبه بیچ این مثلا بحثی روش نکنیم به نظمی یعنی هر چند میخوایم روی ب... اراعه ندارم روی تایپ اراعه ندارم تخصص چی باشی ندارم میگه آقا مثلا ده تا چیز میگه نه تاش اشتباهه آقا من رو اون بحث دارم رو این که چی این که براش درست بکنیم یا نه من... سوال بیشترم آقایشم اصلا میخوایم در مورد هر چیزی که توی اینا, اینا, ب... اینا من نبودم این صحبته ببین من که کردم اینه که الان متفق قولیم که آقا مشکل سیست تو تمام چیزایی که میگیم مشکل سیستمه یه سیستمی پیشنهاد بدیم که اینو سیستماتیک حلش کنه خب ممنون صحبتایی که داریم میشه اگه ای مشتری این من موافقم با دانیال که ما من میگم اما سه سال جلساتمون تعطیل بوده دو ما دیگه هم روش به ما میتونیم برسیم به یه چیزی که میگیم آقا الان میشه روی این ساخت رفت جلو نه یه چیزی دوباره یه سال دیگه دوباره بیفته پایین دوباره بخوایم همین بحث رو بشیم بکنیم من با این موافقم ما ما به نظر آینده داریم صحبت می‌کنیم از گذشته داریم میکنیم. که ببینیم چه اشتباهی شده این تکرار یبا سانیا می‌خوام چون ببینید کد موجود چی رویی میخوایم بسازید دیگه این نکته اول دو اینکه آقا ما اصلا یه پیشنهاداتی دارم اول نکون بس من دکون الان ما صحبت کنیم که چه جوری جلسات رو برگزار کنیم بنظر من الان دمود شکل برگزار به نظر اصلا کله بحث اشتباهی الان بنظر من چون ما الان هنوز معلوم نیست اصلا ما انتظارمون از این رویدادی که می‌خواد برگزار بشه چیه من یه پیشنهاداتی دارم چون که الان ما هر کاریش بخوایم بکنیم بخوایم نخوایم تو صحباتی تا الان داشتیم میگه ما هنوز می‌خوام تهلاک رو ادامه بدیم ما بخوایم نخوایم این تر تد در تداوم اون 18 سالی که تا رسیدیم به اینجا معنی این اینه که تمام کسایی که 10 سال پیشم فعالیت کردن امروز می‌خوام بالنشم بیان مثلا برای منی که الان مثلا من نوعی که الان مثلا من یک سال به کوب دارم میدوام جا پیدا می‌کنم فعالیت دارم می‌کنم اون میخواد بیاد تو گروه الان بحثش شما می‌کنه تو گروه چیزی که مثلا میگه اون گروه اصلا هیچ شنیتی برای هیچ تصمیم گیری نداره گروهی که هیچ کاری پنجو نفر اونجا داریم ما الان هر کدومشون یه جلسه برگزار میکنه ما چقدر جلسه داشتیم تا الان خب اون گروه هیچ شنیتی برای تصدیق دادن هیچ چی نداره یعنی م... کاش یک از تصدیقها اولا که همون جلسه رو همین الان بید منحلش بکنید دو اینکه آقا یه کاری بکنیم بیایم بگیم آقا لاگ با همه بالا پاییناش tehlog.org با همه بالا پایینایی که داشته با همه و که داشته بگیم آقا به صحبتی که شما کردی اول بس آقا ما اصلا موضوعیت اصلا لینوکس دیگه فکر می‌کنه برای اکثریت ما ما بحثمون نرم افزار آزاده آقا دوستا طرف بی اس کار اونم ما خوشحال میشیم احتمالاً ما حسمینه خوشحال می‌شیم اونم بیاد تو چیز بود می‌خواد در مورد دیتابیس صحبت بکنه آزاده چقدر به خاطر اونم بیاد صحبت بکنه آقا یکی می‌خواد در مورد آموزش در نقاشی گرافیکی بده رفت به لینوکس نداره اصلا می‌خواد رو ویندوز انجامش بشه می‌خواد کریت رو می‌خواد آموزش بده جلسه لینوکس نیست جلسه نرم افزار آزادیه ما اگه بتونیم یک نه جذاب نه نه نه من خو... نمیدونم نه میخوام بگم که نکنه لینوکس نیستش که اون برونه الا بحث این بود دیگه نه نه اوکی اوکی <تصفيق> میخوام بگم که وقتی نکنه اون اول شد بحث این بود که ما الان وقتی میگیم گروه کاربران لینوکس مثلا یه ممکنه یه سری تفاهمی ایجاد بشه مثلا آقای تولایی بیاد بگه آقا اینجاست لینوکس چون ما یکی که بحثم این بود یه وقتی میگم آقا اگه بحث اینجاست گروه کاربران لینوکس طرف میخواد کاری نصب کنه شما حق نداری اینو بندازیش بیرون خالیه کی لینوکسه اونم لینوکسه میتونیم بد فعالیت بکنه خب نه طرف می‌خواد بره نمیدونم اون توی ویندوز بره دبلیو اس ال بخ... با اون می‌خواد کار بکنه اونم جزءش حساب میشه اگه حساب میشه اونم بعدش خب این بحث آقا اصلا مسئله لینوکس هست. من اصلا کاری ندارم نرم افزار آزاد چیه اگه ما بحثمون لینوکس نیست اون نرم افزار آزاده بیام یه کاری بکنیم آقا الان که سه سال تعطیل بوده بگیم آقا ما بیام اینجا ببندیمش یا جشنم بگیریم بگیم آقا ما این کلن پرونده رو ببنده یه واقعا جشن بگیریم. بخوا این همه سال با همه بالا پایینش موفقیت هایی داشتیم. یه سری اشتباهاتی هم داشتیم. این مجموع امروز به پایان رسید. چون ما رفتیم میخوایم بریم یه مرحله بعدتر. ما مثلا دیگه مصداقی لینوکس نیست. نیست. نه. نه،, خب آقا... نه. نه اوکی. خواهم میگم آقا. نه باشه. ریبرندش میکنم. دو گروه کار کس بر... دیگه میخواهید کنه برگزار بکنیم ولی ما بیا من یه ج... اسم بهمون میتون رو اسمش چیز بکنیم هر روندی می درست بکنیم دیگه تحت عنوان گروه کاربران لینوکس نباشه گروه کاربران مثلا نرم افزار آزاد باشه ما گروه نظر میشه نه من الان هیچ اسم من تو روحی با با توجه ها آرازی نداره حرفی که دارم دارم چون اینجا گارد میگیری چون بشی بشی ببخشو ببخشو من همین حرفی که شما اول داشتیم میزدیم این آقا رو انا عوض شده ما دیگه مسئله ما لینوکس نیست من درم سوال من درمه خب به تحرم آدسیات هم پله پله بعد انجام باشه و یعنی هم کلان جامعه از هم جامع می باشه از فقط من حرفم تموم نکست خود با این مقدر اون بهتر شدن کارهامون در راستای بهتر شدن کارها و فعالیتهایی که تو الان می کردیم جلس بعد چه اقدامی بکنیم که بهتر بشود تمام نه. مسئله الان اینه جلسه بعدی چه کار بکنیم بهتر بشود من دیگه پیشنهاد دادم دیگه من دیگه پیشنهاد دادم که آقا اصلا کلاً میتونیم به جه که بیام الان چون هر حرفی دارم میزنیم حرف هم این بود دیگه من اینجا شروع کردم که هر حرفی ما میزنیم لا... ناگزیر ربط پیدا میکنه به اون 18 سال من آقا فلش بک نمیذاره الان دارم صحبت میگم من همین الان دارم ایشون داره صحبت داره میکنه آقا آقا می... نب... من حرف یه هشته درستان این, این آدم هایی که اومردن به گذشته اصلا چیز ندارن به گذشته کاری ندارن آقا به نظر من نظر همه مهم همه من نه آقا به نظر من دیگه گذشته نپردازیم هر چیزی شده شده دیگه <متصور> خب بعد فس فردا اگه اومدیم همین اشتباه رو تکرار کردیم اگر فردا اومدیم همین اشتباهی که آقای بهنام توقعی تکرار کرد شما تکرار کرده چکار کنیم اشتماعید که من تکرار کردم اونجا اشتماعید او که من کردم شما تکرار کرده کجا درمان گذشته ما گیر نکردیم تو گذشته چهار سال نذاشتی تقصیر من نبوده پس آه <milligrams> خب این جلسه باید باشه خب آقا همه این چهار سال گذشتیم صده منو فرستادی برایشون نکردید دیگه نکردید دیگه آقا اخذ من من, من, می خب من ها میتونم ادامه بدم من بحثم میتونم ادامه بدم من بحثم میتونم ایشون به من فحاشی کرد تو شبکه جلو همه فحاشی کرد هیچ شما نرفت اونجا ناراحت بشی که فلان الان من ایشونو عصبیشونو به هم ریختم زشت این خب. من بحثم ادامه بدم اوکی هیچ گداش بحث بحث من یه چیز کوچولو بگم آقا, آقا من من هیچ بحث دیگه, دیگه ای ندارم من هیچ دیگه ندارم آقا شما بازمون. من آقا بذم هر من هر آخر من نیمو چرا درو دارن میکنن آخه گارد داری شما در مورد هر چی که من میگم گارد داری هر چی که من میگم شما گارد داری در مقابلش تحمل داشته باش نکردی دیگه نکردی دیگه به خاطر چی همین اون شما صدای من را فرستاده بودی نه بودی یه گفتم یه آدمی باشور پیدا نشد توی این چهار سال بیاد جلسه بذار دموده اخترافات صحبت بکنیم بماند؟ من صحبتمو بکنم خب من نه خب آقا من بزرسه تبون مگه بحثم اجازه بدید که ادامه بدم نگاه کنید اینکه دموده گذشته داریم صحبت داریم میکنیم بحثی نیست که تو گذشته گیر کردیم باصنی که ته بحران اینو داشته از دید من تو اله سعی کردم اینو نشون بدم بدون که بخوام مثال بیارم بحران اینو داشته که تصمیم گیری کجا داره انجام داره میشه شما الان میگه آقا می بریم آینده تا کی باید تصمیم بگی من, من،, من تموم بکنم من صحبتو تموم بکنم آفرین من می من... به این برسیم من می به این برسیم خارج نه خارج نه, نه آقا. ایشون ایشون اوشون کسایی که تو جلسات نمیان حتی شرکت بکنن چرا باید حرفشون برش بیشتری داشته باشه نسبت به شمایی که مثلا من یه چیزی آقا آقا من... آقا شما انتظاری نگاه, نگاه کن هر این بحثه. آقا اینو صحبت بکنیم داریم صحبت داریم بحث دیگه داریم صحبت داریم دیگه بس. آقا شما نه من بزرده. تو جلسه کنم آره یه لحظه آقا آقا جفت آقا بغل دستی‌هاشون کنترلشون می‌کنم آقا آره بغل لاستیاشون کنترلشون کنترلش کن, کن. آقا شما گذشته هم گذازمونو ببین آره آقا آقا یه آقا یه من صحبت واسه آقا بچه همه ساکت باشین من میخوام صحبت کنم همه ساکت بشین من میخوام صحبت کنم همه ساکت بشید اوکی اول سکوت رعایت کنین آدمای دیگه‌ای هم اینجا هستن اونا اذیت میشن خب آره ما از کافه پرت نکنم <تصحبت> <تصحبت> اوکی این داستانه اول داستان دوم اینه که دبین جفتتون به نظر من دقیقا داره یه حرف میزنید من این ادبیاته انقدر با هم متفاوته متوجه نمیشید که مثل اون داستان انگور و ارنب و فلان و اینا شده این داستان آقا الان ما میخوایم صحبت کنیم راجب این که جلسه آینده لاگ رو چطور باید برگزار کنیم خب نکته اینه که الان صحبتی که من برداشتی که الان از صحبت آهنگرها دارم و بخوام فقط با لایک و دیسلایک نشون بده که آیا این صحبت درسته یا نه صحبتش اینه که یکی از پایهی ترین چیزهایی که باید تصمیم بگیریم برای جلسه آینده که چطور برگزار بشه اینه که سیستم مدیریت تصمیم گیری توی لاک چطور باشه درسته؟ خب فکر نمی کنم. کسی هم اینجا باشه که با این حرف مخالف باشه هست؟ کسی, مخالف... کسی مخالفه دست بود برافر همه لی اوکی پیشنهاد داره که خیلی خوبه من این این این قضیه رو حل کنیم با هم دیگه که دعوای علکی پیش نیاد جفتتون به نظر من من فکر کنم خودتون با این حرف هستی آقا اصلا جفتتون با هم موافقید فقط سر نحوه بیان کردن و صحبت کردن صداتون میره بالا هم خودتون ناراحت میشید هم من ناراحت میشم هم بقیه ناراحت میشه اینو تفکرید پیشنهاد داره میخواد بده من تکمین صحبت های قبلی خودم کسی کار ندارم چی همون موقع یک اساسنامه های لاک های ایران رو من جمعوری کردم تبریز، گیلان، اصفهان، غیره غیره فکر کنم یه مرامنامه بود یه چیز آره همون از شمام گرفتم با تلفیقی از همون راهنمای کاربری لینوکس جهانی و حتی سازمان انجیوه ایرانی سازمان مردم نماد اساسنامه یه تلفیقی کردم و یه اساسنامه نوشتم. متاسفانه جایی به صورت کاربودی نداشت. نمیگم حتما باید با این اساسنامه پیش بریم ولی میتونه ویرایش، ویرایشش کنیم با خرید جمعی اگه دوست داشتید اگه نخواستید اصلا پارش کنید. این کجاست؟ این تو ایمیل نامه باید پیدا کنم. میپس. تو سایت نیست؟ تو سایت نیست. آقا ما کنیم بزر من واسه اینکه یه راهکار عملی هم داشته باشم و این پیشنهاد فرشید رو هم عملی کنیم اینه که آقا ما تا در واقع تو این آخر هفتهی که تحدیلی خورد سرمون احتمالا قلبت تره بشینیم چیز بیاریم بالا دیسکورس بیاریم بالا و اصلا این پیشنهادی هم که فرشید داره رو بره پیدا کنه اونجا افلودش کنه. چی؟ حامل هم افاده چرا؟ بگو موافقم برای اینکه بحث‌های ادامه دارمون رو اونجا ادامه بدیم و یعنی بعد آدم‌های جدیدی که میام ببینن قبلی‌ها چی گفتن تا این اینش خب؟ ولی اینکه برای جلسه بعدی ما الان چه حرکت جلوی انجام بدیم نه, نه من در او راسته نمیگم و من در راستای حالاله هستم حالت کلی داره میگم حالت کلی دارم اوکی حالا شما چند چی میشه که میشه آقا ببین ما الان چند نفر آقا 20 نفر اینجا داشت نه آقا تا ضمن اون تا میرسه آره، آره. خوبه ها آره. نه جریان اینه که من اینو از برداشت همین آهنگر متوجه شدم که کسی که حالا اینجا اعتبار بیشتری توی جمع داره همیشه انگار تصمیمات اون میگیره مثلا حرفی که اگه قرار باشه دانیال یا بهنام بزنه برش بیشتری داره تا من نوئی که مثلا دو سال اومدم خب با سابقه ترم بچه بچه‌ها و این این برداشتو ایجاد میکنن که طرفی که یعنی رافی که تازه اومدی توی جمع این جرأت رو پیدا نمی‌کنه مثلا حرفی بزنه ایده ای بده یعنی من میگم برای حل این مشکل این میشه که کسایی که حالا عقب‌تر بودن خودشون رو یه ذره بکشن توی دایره‌های عقب‌تر و بچه ها رو هول بدم و بهشون ایده بدم مثلا من نوئی وقتی اومدم توی کانال دیدم توی elements بود دیدم دانیال زده نیکس کلود و مثلا کی میاد چیز کنه من خودم واقعا جرأت نکردم بگم چون میترسیدم بیام یه ارائه بدم خراب کنم یعنی ولی میدونن فضای ایجاد میشه که آره آره این یه بخش همینه من دارم همین نمی بینم یه جووری باید باعت... نمیاد که من دارم میگم اون یه بحثه اینکه گفتم همینه, همینه یعنی اینا همش رفت داره ما همه هم انسان دیربات که نیستیم یه حرفه ما همه چیز رو چیز کنیم ولی اون بحث همین اراهم که هست من میگم و تممادم میتونه برای اینا بذاره یعنی هر ارائه که میدن خب بقیا میام بهشون ری بدن که آقا اوکی بود بعد بود. چیزم. همه هر کسی که نه. همون سیستم رو باید درست کنیم که میگم این فیچرائه میتونه باشه که توش ارائه بده نه. وای است صدای عربی گیرنده ها مشخص شدن حالا معلوم نیستش باز همون اشتباه قدیم ببین واقعا بهنام قبول دارید چیز بوده دیگه یه تا تصمیم میگرفتن مثلا تصمیم گرفتن که آقا برنامه کوبرگذار بشه تحت عنوان تهران روز همگرو کردیم و این کار انجام میشد یعنی نه اینطوری نبود که بهنام تبعکدی آباد بشن مثلا تصمیم بگیرم و اون تموم بشه ببین به زمان باصا من من آقا من من میدونم یه لطفا زد... تعفیض کن به من آره آره نه من میدونم که این اتفاق کجا میفته نکته اینه که اون زمانی که این اتفاق میافتاد ما کلاگمون 20 نفر سی نفر بود با همدیگه صحبت میکردیم این داستان حل میشد همون دقیقاً حدود 20 سفر بودیم رفیق هم دیگه بودیم این داستان برگزار شد. الان ولی موقعیت فرق کرده همونطور که بهنام گفت آقا الان صد خورده خوردهی آدم حداقل هستن که میان تولاگ دیگه برای این مدیریت این سیستم با 120 نفر ما احتیاج داریم که یه سیستم تسلیم گیری شفاف‌تر و مشخصی داشته باشیم آیا موافق این همه با این آه. اوکی خب اوکی منشو اوکی یه من بگم ببین من الان مسئله اینه که اون به نظر اولین اقدام میتونیم اون گروهی که هستش هماهنگی رو کلا منحل کنیم همون گروه تهران لاک شاخه بخوره یه شاخش هماهنگی جلسات باشه همه حق اظهار نظر, اوز اوز نظر. یه گروه تهران ها... تهران هر چند هزار نفری به نظر من ببین یه نکته هست نفریه گروه 80 نفریه که تصمیم گیرندن من میگم گروه هشت نفری اشتباهه اینو حذفش کنیم یه سابگروه گروه بخوره تلگرام قابلیتش گذاشته ساب گروه بخوره برای هماهنگی که چند هزار نفرم من, من حالا صحبتی که دارم اینه که تلگرام برای انجام چنین کاری سیستم مناسبی نیست خب یه سیستم باید. بهتری آره با هم دیگه چیزی کن بذا علی هم صحبتش خوب یه لحظه ببین ما حالا یه چیزی ببین ما یه چیزی داشتیم که داشته کار میکرده میخوایم بهبودش بدیم خب من دارم حرف میزنم تغییر شرای اخلال شده من نمیگم نمیگم مینتیننس نمیخواد به من پیشنهادی که دارم میدم اینه توی اون دیسکورس ببین توی دیسکورس خب خو فعلا خود دانیال خب چون این الان یه دوایی وجود داره یه سری آدم توی این بحثمون بیترفترین با تجربه ترین الان دانیال خب بیاد دیسکورسه رو درست بکنه ما بریم اونجا شروع کنیم به بحث کردن اساس نامه نوشتن سیستم ها رو شفاف مشخص کردن ساز و کردن و اونجا با سوسی و خب یعنی همه رای بدن همه موافق باشن خب روند اصلاحیش رو پیش بگیریم خب و تا زمانی که اون کار انجام داره میشه تو این روییلی که داشتیم 18 سالی که اومدیم شروع کنیم دوباره مثلا با یه فرکانسی جلسات رو داشته باشیم که مدیوم هامون جا، اون کامیونیتی اون دسترسی مون به آدم ها رو از دست ندیم. این حرف درسته؟ این حرف درسته که داری میزنی ولی یه چیزی هم نگه‌بانی هم توش هست. اینکه اصلا این برگزاری جلسات با اون صحبت‌هایی که داره اونجا میشه دو تا شاخه مختلف بشه هر کدوم در واقع برن به سمت یه سمت دیگه همگرا بشن مینویسیمش باه حواسمون باشه که استپ وقتی که سی را میندازی توی هر مایگریشن یه سری هم مثلا با غیر نویسی بک خوب چیزه تو هر تغییری شما بک وورد سعی می‌کنی یک تغییر جزئی ایجاد کنی که بیاد به سمت اون مسیر اگر دو تا چیز متنافر باشن که خب بیاین یه چیز جدید درست کنیم اسم اونو میذاریم اون هر وقتم این یکی بعضی آدما تو شرکت نکردن تموم میشه خب من هم دارم میگم من, من که این اتفاق بیفته خب نه دیگه میگم آدم‌ها باید حواس اون باشه تو اون اساسناما و پالیسی و این‌ها این نگاه به این تجربه باید بشه استپ اجرایی واسش معرفی کنیم بگیم اگر این کارو کنیم این تغییر اتفاق این خوب است اگر موافق بودیم، یه تست کچیک میگیریم، ببینیم اگر رقبت کامیونیتی رو داشت، اون مسیر رو هم ادامه میدیم. تا آروم آروم این یکی رو بتونیم دیسکانتینیوش کنیم. یه انقلاق آروم با من, من. من مشکل خاصی الان حداقل در این لحظه با این ندارم. سلام. اولاً که بنده <تصفيق> موافقم با, دی بس بس موافق با قضیه دیسکورس خب به لحاظ فنی هم، اگر دفته تو کمکی میخواست، من در خدمتم چی؟ فکر میکنه میکنه بس میکنه بس میکنه میکنه میکنه میکنه صحبتی مخالفت آره. من مخالفتی ولی حالا من من, من. همه تو ببخش، شرمنده دومین مسئله این که به اینو به عنوان تجربه میجم ما لاگ ماهانه داشتیم لاگ دو هفته یک بار داشتیم لاگ هفتگی داشتیم حتی زمانهایی بوده که دو تا لاگ در یک هفته داشتیم خب دو شنبه سه داشتیم،, داشتیم آره داشتیم تر مختلف خب و آه... به طور خاص تجربه من برای جلسات این شکل چون من ایونت های هم, هم تشکیل دادم هم کوردینیتو م... و ایونت های دیگه هم هستم تجربه اینه که معمولا هر دو هفته تا هر چهار هفته یک بار خوب جواب بیده آدم میان خب و یک چیز دیگم بگم اون همین که این صحبتی که الان مثلا صد مینیموم صد نفر آدم یک هر سوا زیر میشه خب یک قسمتش بهم به و به همین سابقه 16 ساله یعنی حواس ما به این باشه سابقه ه باعث شده شناخت ایجاد شه عدم این سابقه وجود نمی شناخت هم نمیشد، نمی خب دومین مسئله این که من هم با دانیال و حالا هم علی و کلان این حرف که آقا ما اولا باید سیستم سازی کنیم یعنی اینو فکر نمی کسی اینجا باشه تا مخالفه این باشه ما بس سیستم سازی نه معنی فقط مدیریتی به معنی یک ساز و مجموعه ساز و کارها و که باهم تمام مول میکنن باید بسازید. تا الان نداشتیم عملا داشتیم ولی اکسپلیسیت نبوده خب <تصفيق> هم کوچیک‌تر بوده هم خیلی زمینی بوده بین قرارداد ننوشته بوده اینو بیایم سریحش کنیم واقعا خب و اینکه حواسمون هم باشه که این اینو دقیقاً تولایی واسه اینجا نمیتونیم یهو انجام بدیم چون یهو انجام بدیم یا باید ریبرند کنیم چاره‌ای نداریم خب معمولاً برای یه یهودی تو بیزینس میان میبند میکنن که بتونن اون بیس رو هم نجاه بدارن یا باید یک کنیم باید نزدیکترین تعقیبی که اداب بدیم خب یهش قدم واقعا به چیزی چیزا دوستمون نزدیکتر میشیم یعنی آپتیمومه از طرف دی‌جی اونقدر تعقیب ایجاد نمیتونیم که سیستم ناپایدار شه خب بعد اینو پیدا کنیم بعد اون قدم بعدی رو پیدا کنیم خب یکی از این دو تا کارو بعد انجام بدیم به نظرم الان واقعاً به عنوان بحث اجوایی ها من کار الان به خود جلسات لاد ندارم به عنوان بحث اجوایی من به نظرم واقعاً دیسکورس رو شروع کنیم و خیلی جدی مکالماتمون رو بریم اونجا که هم مستند شه هم اینکه بتونیم مدون حرف بزنیم خب پس دو تا پیشنهاد دادم یکی اینکه دیسکورس رو سریتر شروع کنیم و به طور جدی و جدیش بگیریم دو برای برابر یه جلسات من نظرم بین دو هفته الا چهار هفته یعنی این کروال بین دو هفته تا چهار هفته باشه معمولا بیشتر از چهار هفته جلو آدم جلو آدمو فواموش میکنن رو درست کنیم بعد بریم حالا جلوتر حالا بیس اولیه راه نیافتاده یعنی نمیدونیم کیا قراره تصمیم بگیرن کجا قرار اینا نوشته شه رفتیم رسیدیم حالا کی برگزار شه اصلا میان نمیان این اولیه‌رو درست کنیم پله پله به قول به نام با یه جلسه این ردیف نمیشه یه جلسه نمی جلو من یه دفعه اینجا دیتاتابی بخرج میدم شما حرفتو بزن نه دیگه نه ببینم بیا سن دیگه دیگه چه دیگه یه سو کن نه مصطفی صحبت کن بذار نه اخه نمیشه که هر دفعه من میام میگم صحبت بکن ولی این نیم ساعت لست اول به من دادید هر دفعه میام صحبت می کنم به یه دهر مسخره بچگانه قطع میکنید نه دیگه آقا میکنن دیگه نمیشه دیگه اول آقا من یه سوالی بپرسم چون ما با فکت که دیگه دعوا نداریم که فکت فکت دیگه آقا سه سال جلسات لاک تعطیل هست یا نیست مسئولش هر کی هست تعطیل هست یا نیست خب خب هستش دیگه من هستش دیگه خیلی خوب سه بار تالون موافقت کردیم سहेब نه بعضی اپروغان قاطی می‌کنن وقتی این گفته میشه تعطیل به هر دغدی که تعطیل تصمیم گرفتین تعطیل بشه آقا من نگاه کنید می‌خوام بشیم چیز بکنم تو دیسکورس شما الان هر صحبتی که داریم درمی‌کنید سری براش جواب فنی سعی می‌کنید بیاری تو میز خب دیسکورس بیر میخواین بشین اونجا بحث بکنیم آقا کیا قرار اونجا بحث بکن نظر بدن و تصمیم بگیریم در مورد چیزا <تصحيح> خب باشه بگم الان عجله چیز بکن مسابقه است که الان هر کی اول بگه بینه بدن بهش من فکر چیز بکنم جواب بدم ما ندارم ندارن هر نه, نه تاکید آره در باید چیز بکنیم سوالی بود داره ببینیم که سوال هست ولی سوالی نبود که الان کسی بخواد جواب بده بر... یعنی حتی اگه رأی هم باشه کیا رأی میدن که نه اینا درسته اینو سواله مهمی که بعد بهش بپردازیم دقیقا باید چیزی که بشون درماش صحبت بکنیم حالا شما میخوای دیسکورد بیاری بالا تلگرام میخوای بیاری بالا نمیدونم هر سیستمی که میخوای بیاره این سیستم پیاده سازی این ماجراست کل بحث من این بحث اصلا یه بحث فرهنگیه این علی صحبت که من اینجا دارم میکнам بحث فنی نیست لگ کیا بعد تصمیم گیری اصلا سوال اینه کیا حق تصمیم گیری باید داشته باشن توی لارج تو هر جایی من نظرم اینه که کلا تو هر سیستم گروهی کسایی که دارن کار میکنن کسایی که وایس دادن پای... من میتونم بشن در مود هزار بدم شور باد حواس حرفی کسی که داره کار میکنه کسایی که دارن کسایی پای کار وایس دادن یہ مکانیزم واسه پرین پده بکنیم که اینو بعد روش چه مبنی بزنیم یکی از ده سال پیش کار کرده آقا ما مخلصش هستیم آقا تو 5 سال گذشته کار نکرده نظر مشروعتی مشورتی مخرس شم هستیم میشنویم ولی تصمیم گیری میخواد بشه کسایی باشه که الان وایسدن پای کار نه اینکه بی تصمیم گیه. آقا ما اینجوری باشه اونجوری مثلا بیان من بیان, بیان بگم که آقا جلسات ما الا و للا باید بشه تو برج میلاد همین هم بیان به من رأی بدن کی میخواد برای اینو پیادهش بکنه من وایستادم که پیادش بکنم میکنه میگه تو سابقه ما نشون میده که نیستی همچین چیزی ملت میگه آقا ما هستیم نیستیم همین امروزش پیام داده که آقا ملت اس بدن پیام بده ایمیل بزن شماره تلفنشو بدن که میان چند نفرشون اومدن چند نفر نیومدن بیشترشون اومدن نیومدن یتی میگم این مدلیه دیگه جامعه مدلیه حالا این برای جلسه است میگم جلسه مهم نیست میگم هماهنگ بکن جلسه بود. ما تو دوره همگیونا مثلا این برنامه رو ما داشتیم اونجا ما فرهنگ سازیش کردیم که آقا واقعا کسایی بیان در مود این ماجرا نظر بگیرن جلسه بعدی ما کجا باشیم؟ واقعا هستن تو جلسات چپ واقعا یه دفعه واقعا پیش اومد تمام کسایی که ما رأی داده بودین که مثلا چهارشنبه فلان جا باشه اونا گفتن سه‌شنبه فلان جا باشه ما سه‌شنبه رفتیم چون رأی اونا بیشتر رفتیم اونجا هیچ کدوم اونا نیومده بودن ما رفته بودیم خب این اتفاقا نه بیفته کل صحبته که من جا... من چه مثال نمیگم کل بحث من این بود که اتفاقی توی لاگ افتاده تا امروز آقا هر کسی اشتباهش بوده یه وقت اشتباه بوده میگم آقا اشتباه بوده نمیخواستیم اینطوری بشه شده مش ازش درس که بیگاه این کارو نکنیم ازش چه چه درسی میتون بگیم بریم جلو یه وقت همینطوری بوده این اتفاقی نیوفته بفهمین که آقا مساله چی بوده من کل حرفم اینه ما با بشین دمودین از نظر فرهنگی باید دمودین تصمیم بگیریم پیاده سیاستش اونو میتونیم حالا تو دیسکورد یه دیسکورسی چیزی براش پیدا کنیم نه جلسه میگم آقا هر دفعه تو جلسات رای گیری میگیم می نمیدونم اونو با بشین پیداش بکنیم مثلا اینکه اولویت با باشه که پای کار وایس دادن حرف من اینه <تصفيق> جوری یه جوری که نه خیلی سفت و سخت باشه نمیدونم باید بشین یه چیزیش بکنیم که واقعا اگه من یه ساله که دیگه فقا فعال نیستم اگه دامن ها همه چیم دست من من واقعا باید مرااً این دست تی تحب کسی بدم که فعال و الان افراد قبولش دارن مگه فعال نیست واقعا نبا بیام چیز بکنم بیام در تصمیمگیر دخالت بکنم اوکی ببین حرفی که میزننی حرف خیلی منطقیه فکر اون کسی مخالف حرفی که الان با سفا میزنه باشه که. فکر کن همون هم موافقیم دیگه اوکی؟ ولی یه نکته هست اینکه ما الان هی بشینیم و این صحبتتر رو بکنیم به نظرم باید همینجوری هی بشینیم و صحبت کنیم خب من یه پیشنهادی دارم اگه بقیه اعضایی که اینجا هستم موافقنم پیشنهاد من هیچ چیزی هم روش نه تعتصابی هم روش ندارم ممکنه که اصلا خودمم هم مخالفش بشم بعد از صحبت های شما ولی پیشنهاد من اینه که این تو داره میگی که یه سیستم تصمیم گیری احتیاج داریم میگه من خلاصه صحبت اینه که نیاز به یک سیستم تصمیم گیری داریم اون پیشنهاده برای این که این سیستم تصمیم گیری چطور باید باشد رو بنویس نه با امان چیز با امان سنگ بنایی اینو بذار اونجا میریم حالا دیسکورس یا هر دیگه ای که هست میاریم بالا اونجا میذاریم روی اون با همدیگه چککشکاریش می کنیم این ورش رو درست میکن اون ورش کم می کنیم یه جا دیگه زیاد میکنیم در نهایت به یه چیزی برسیم که اکثریت باهاش موافق باشیم دیگه حالا من نمیم فقط تنها باگ این قضیه اینه که اون اولین نفری که باید موافق باشن اونا کیان میتونیم اصلا برای بذاریم الان بی سفری که اینجا هستیم نمیدونم مخالف تصمیمگیری نیستم. یعنی ولی. از 86 تا الان که درگیر بودم چیزی که بهش رسیدم اینه که هر سیستمی که طراحی بشه حالا تحت عنوان هیئت مؤسسین هیئت گردانندگان تیم گردانندگان تیم اجرایی هر سیستمی که باشه قطعا بایک داره قطعا, داره. قطعاً بایک داره و هیچ حالت بهینهی وراش وجود نداره و اصولا هم من احساس میکنم بعد برگرده به قدیم لاک یعنی مثلا میگوی چی تصمیم میگیره مثلا که این اتفاقا بیفته من میگوی تصمیم همین جمعی که اینجا هستن بعید میدونم مثلا همین جمع همین 20 نفری که اینجا جمع شدیم به یک تصمیمی برسیم که اقنا شده باشیم یعنی چیزی که من میگم با چیزی که مصطفی میگه دقیقاً یکی باشه. همگروء اقنا کرده باشیم و به اون نتیجه رسیده باشیم نفر 21 کمی وجود داشته باشه که این جلسه رو نتونسته باشه و بیاد اینجا نظر 180 درجه مخالفش رو بگه. خب ف... هر سیستمی که طرح راهی می‌کنی مثلاً یا مثلا این 6 نفر تصمیم گیرندگان اصلیان این هفت نفر تصمیم گیرندگان اصلیان هر چی اینا بگم میشه همون. خب ف... و این 6-7 نفر هم به صورت دورهی بر اساس این مکانیسم ها انتخاب میشوند و احلا و غیره هر سیستم پیش بواری بایت میافته دوش مثلا اگه وزارد ارتباطات دوری و بخواد بیافته دونباده که مثلا کامیونیتی مثلا تصویب کنه آدم هاشو میفرسته بیان داخلی سیستمشون و برن رگیری خودشون انتخاب بشن برن جلو اینه چی میگن؟ که این رو ما داشتیم قبلا من به نظرم همون سی بیشتر گفتگو بکن. یکی این که این جراساتی این شکلی رو دوستانم دیدن که اعتراضش عمومی بوده. کسی فیلتر نکردیم که بیاد یا نیاد. گفتم آقا هر کسی تقریبا جواب ایمیل‌هاتون رو دیدید دیگه. آقا شما جزو کسی هستی که تا حالا تو جرصه شرکت کردیم، می‌خوای کمک بکنید، این جرصه جای شماست. یه سیستم اوپن باشه. جراسات اینطوری باشه. حالا مثلا 3 ماه یه بار ترجیحاً یعنی فصلی یه بار برقرار بشه. و اون جمع بشونن همینطوری حضوری 4 ساعت بشونن و هم یه صحبت بکنن و هم را اقناع بکنن بعید میدونن ما مشکلی توی لایک داشته باشیم که بخوایم براش اساسنامه و چیزهای دیگه یا تعریف بکنیم چون ما داریم یه چیزی رو درست میکنیم که خودش دوباره داستانهای دیگری داره به نظر من بعد برگردیم همون سیستم اقناعی که قبلا داشتیم و همون ادامه بدیم اوکی من حالا چون در رابطه با این داستان گفتی ببین آره قطعا هر سیستمی باگ داره اصلا سیستمی بدون باگ وجود نداره ولی میشه در واقع چیز کرد دیگه فرقیش بس اینه که آقا دبیان بیشتر باگ داره یا ویندوز خب جفتشون باگ دارن زیادن باگ دارن هر جفتشون زیاد باگ دارن ولی خب نسبت باگی که ویندوز داره چند صد برابر اصلا باگی که دبیان داره خب یه نکته اینه و چیز بعدی اینه که خب ما فعلا چیز نکنیم روی چیزی که هنوز رو میز نیست قضاوت نکنیم. شاید اصلا مصطفی پیشنهادی داشته باشه که هممون ببینیم عاشقش بشیم. اگه نه پیشنهادشو داد میگم آقا به این دلیلی که این پیشنهادی که داریم گی به این دلیل و این دلیل و این دلیل مشکل داره. جا... جایی که به باگ می خوره میگه اصلاً چی تایید بکنه که اوکی این اصلا خوبه. چی ببین گفتم دیگه خودمون تایید خودمون چیه؟ گفتم گفتم من همون موقع هم که اینو داشتم پیشنهاد میدادن گفتم که آقا این باگ این قضیه فقط اینه که همین پیشنهادی که داره میده رو سر چی میتونیم بهش در واقع چیز برسیم آره این سیستم چه جوری باید انجام بشه این یه باگ اینو باید روش فکر کنیم یه طرف دیگه حالا من نکاتی که نوشته بودم این بود که جلسات فصلی این شکلی برگزار کنیم که اصلا خودت گفتی هیچ چی و نکته بعدی این که سیستم قبلی توی شرایط قبلی خیلی خوب جواب میداده ولی با این افزایش جمعیتی که داریم با این همه آدم جدیدی که اومدن به نظر منه ها ممکنه نظر من غلط باشه به نظر من دیگه سیستم رفاقتی جواب نمیده باید یه سیستمی داشته باشیم که ببین سوسیوکراسی همون سیستم اقنایی که چیز میگه به بهنام داره میگه اسم دیگش سوسیوکراسیه همه باید موافق باشن و همه را سعی کنی توجیه کنی من الان چیزی که دارم پیش میدم بر اساس تجربه ای که توی پی اس اف داریم توی مثلا کامیونیتی دیگه هست بینون میشه که بشینیم اساسنامه بنویسیم ناظر داشته باشیم بابا با انجان فارغ التحصیل شریف مثلا ساله که هستن خب حالا 100 سال آه. که نه ولی یه سال حسن. آره اه... یه بازه زمانی زیادیه که هستن دبیر داره چی داره چی داره فارغ التحصیلام دارن رنگ میدن ما باید بشینیم کالیسی واسه مریت دادن واسه حق رأی دادن واسه ممبرشی مثلا تو پی اس اف نه تو پی اس اینجوریه هر کسی میتونه ممبر باشه ولی اون کسی میتونه رایی بده که مثلا ماهی انقدر ساعت فعالیت داشته باشه خب؟ افعالیتم تعریف کرده ما بعدش پالیسی بنویسیم با این جور که دارم چیز میبینم نظره جامعه هم قرار شد که بنویسه دیگه اینو من از دوش, دوش من و اصلا با آوانا با اون اصلا خیلی درست بیش از 100 نفر میون جلساتمون کسایی که جلسات برگزار میکنن نهایتا 20 نفر ما میخوام اصلا هدف این کارو که این افرادو بیشتر کنیم دیگه یه کاری کنیم که که الان ماجاری میکنه این الان دیگه حنا نمی کنیم مثلا مشکل همین ما اصلا انتخاب نمی کنیم نه ما بالاخره نمی توی نظر بریم، نه که فرد انتخاب میکنه میگیم افرادی که اینج... آقا افرادی که تو این جلسه باید. مثلا میگم آقا ما تا جلسه میخوایم بزنیم 7 جلسه پنجم به یه جایی رسیده باشین اون کسی که تو این 5 جلسه حداقل سه جلسه شو بودن اونجا میتونیم یه نظر رای بده بدن شاید مثلا یه یکی به دلیل پزشکی نتونسته باشه اومده باشه و همین! همین, همین که نمیتونیم خرش بکنیمانی. بکنیم مشکله تایی ما هر سیستمی هم بچینیم تاییش آدمیزا داره اجوارش می کنیم بهتر این سیستم افرادی که شما میگید من عمومی پخشش کردم که هر کسی که دق دق منده بیاد چقدر تو تهران آدم دق دق مند بوده عدقل حالا 20 نفر اینجا هستیم خانم تراشی با عنوان یکی از فعال در هاست نمی تونه خب چقدر بیا. ممکنه این عدد چقدر ممکنه باشه یعنی شما جلسه پرسنل هم بیان نمیشه یعنی همین ای... همین ایونت رو بذاریم س شنبه مثال و این 20 نفری که اینجا جمع شدن 20 نفر یهی باشن مشکل اون اینه مثلا من نمیتونم یه بله. حرکت بزنیم با دو تا حالت <تصفيق> یا گیت ان بذاریم یا اور که مثلا بگیم یا مثلا اکتیویتی طرف یا حضور طرف یا هر جفتش یعنی هم اکتیویتی هم حضور هر جفت اینا که اون خیلی سختتر میشه ولی میار هم حضور یا اکتیویتی میتونه معیار درستش. این صفر و یکی نکنیم مثل اینکه شما میگید مثلا اگه سه جلسه بود بتونه رای بده، اگه مثلا دو جلسه بود یا پنج جلسه نتونه رای بده. ظریف بدیم به شما اگه سه جلسه بود نظرش از اون یکی دو جلسه بود به نظرم آه. چیز نکنید وارد پیچیدگی‌های ریاضی و آماری نکنید داستانو و دیگه خیلی پیشینی میشه نظر منو نظر ما میشه قشنگ میشه پیاده میشه سخت من پیاده سازی سخت میشه اینه که مبنای چی باشه ما بعد با پیاده بکنیم سیستمی که اون مبنا رو پیاده بکنه خب ما الان مثلا اینه بخوایم بگیم اگه بخوایم با این مبنا بریم که پس فردا چکار بکنیم اگه وزارت ارتباطه ما یه دیره چیز میگه خب ما بعد بکنیم نه اخه چه حرفیه یعنی الان ما می‌خوایم یه فیلتر بذاریم که مثلا شاید کاری که دقیقاً تیر 99 اتفاق افتاد این بود دیگه یه سری چیزا چون از فیلتر آقایون رد نمیشود خط تا چی میگن دیگه مجاز بود که هر کاری باهاشون بشه خب اینجوری که نمیشه ما بیایم بگیم آقا از وزارت خونه کسی فرستاد حالا اصلا فرستادن نه فرستادن من آدم دولتی هستم نیستم میزنن دیگه حرف میزنن جوو درست میکنن چی دست میکنن اینجوری که نمیدونید چی میگید ما یا فعالیم دارین فعالیت میکنیم یا اگه فعالیت نمیکنیم هر کیس دیگه اومد گرفت ما دیگه حق اینو نداریم بیایم بگیم آقا ما رو ما ما کشیدن بیرون اگه پیشنهاد سه نه آقا پیشنهاد میده خب بگم بیا در همی دارم می خوام مثلا اولین شکیه بشه که مثلا کلا یه بار اصلا اومده باشه تو ترنلایک یعنی اصلا اصلا نیامده باشه اوه ولی بگم من میخوام خوام توی ترنلایک کار بکنم و با کمکتون بکنم نمیتونم جلوی ورودش بگیرم اون سیستم باگش دقیقاً همین اینشونه که نمیذاره ایشونو بیاره تو تو میگید من برشت می دو چون جواب دارم می من صحابت کنم؟ آه. بیا ممنونم. فقط دو ایکس و بدونه بسم الله و عمال رو بسم و یعنی نه اصلا ما مثلا بگیم آقا جلسه بعد میخوایم بذاریم بشنیم درمود هم سیستم تصمیم های مختلف مختلفو بذاریم درمای صحبت بکنیم مثلا دیسنترالایز باشه دست یه... یه دخواست نباشه همه هم... این دیسنترالایز شدنش با یه قانون این که بگیم من میخوام دارم آروان برگزار کنم جلسه رو درست اون نصف مخالفن این نصف موافقم برگزار می‌کنیم من موافقم با این چرا نكنی؟ اون, اون, اون, اون, اون تصمیم رو کی باید بگی که شما بعد بتونین کارو؟ خب من برای این آفرادی, افرادی که اجازه بدین ما فهمم بزنم نباید یه نفر باشه بلندش لازم نباید یه نفر بلنش بیاد بگه که آقا ما 18 سال این کارو نکردیم. آقا 18 سال نکردید نکردید. ما الان صحبتی که من اول کردم میگفتم آقا ما نکردیم الان نمیشه کرد. ما چیز نباشه یه چیزی تو ضمانت کار واین. بهنام هم با این موافقت کرد. گفتم ها چیزی نگیم که قدیم بوده، الان نبوده یه لحظه سعید مثابتش رو سعید که؟ نه، بسید سعیدی یه لحظه بذار میکشوفان اینجاستی، بگید با... درگیران بگو، بگو، آقا، آره من دیگه دا... حرف نگو آقا، یه چی این که ده... این جمله چه این بهینه نداره، قلطه خب، سیستم ها حالت بهینه دارن وظیفه ماستون حالت رو پیدا کنیم اما این که هیچ باجین نمیتونیم سیستم بدون باج بسازیم اینو قبول ندارن خب حالا در همین راستا دو تا نکته رو میخوام بدم نکته اول این که شما چه بخواید چه نخواید وقتی یک سیستم از یه حدی بزرگتر میشه این اثبات بیazgo پشتشه خب یک سیستم از یک حدی که بزرگتر میشه چه بخواید چه نخواهید سلسله مباتع پیدا میکند خب این هم اثبات بیazgo پشتشه هم دلیل تکاملی دارد خب قریشم نمیتونین بکنین از یک حدی سیستم نمیتونه بزرگتر بشه به این صورت خب و اون فدوله حد ب اکتور اگر میخواد مرزش رو بدونید تقریبا یک سیستم در از 50 تا اکتور سر. کی 52. آره معمولا دیگه از پنجاه تا روزاش این مرتبه شروع میکنه ساخته شدن خب حواسمون به این باشه خب نمیتونیم همیشه سیستم فلات نگه داریم حالا راه حل من برای چه همون اول رفتم من با دیستورد موافقم و وقتی تو رفتی سریاه فنی رفتم این فنی نیست فقا کاملا فرهنگیه خب حالا تولایی به زبان مدیویتی رفت مریت و کردیت ایجاد کنیم من به یک زبان دیگه میگم میتونیم از همین جماعتی که اینجا هستیم از همین آدمایی که اینجا هستیم خب بریم عضو شیم و چیز دیسکورد امکان گروه بندی دارد ما اینو سر انجاما انجام داده بودیم اگر یادت باشه و کابی که انجام بدیم اینه آقا همه بتونن عضوشن همه بتونن ببینن اما فعلا در شروع همین آدم هایی که اومدن رفتن ما میاییم و اومدن خب همین تقریبا کن نفر دو چهار هشت ده دوازده چهارده هیوده خب همین هفده نفری که الان اومدیم اینجا نشستیم. خب؟ ما شروع کنیم جلسه بعد یکی دیگه میاد یکی میاد میگه آقا اونجا دیسکورده طرف میتونه اون زیر کامنت بده مثلا رعیبو نمیتونه فقط بده ولی کامنت که میتونه بده خب دیسکورد راییی برسیم به برس. برس. آقا این من هفته هم خیلی واسقا میکنم، ترجمه از همه تون کمتره ولی فکر کنم یکی از مهمترین دلیلی که لاکتون 18 سال مونده بلند که سال مونده مهمترینش اینه که پول وسط نبوده یعنی هیچ پولی وسط نبوده هیچ نفع شخصی وسط نبوده من چیلی که حس میکنم و خط قرمز منه، من شخصی ها چیلی که دارید، حالا یه ماها اینجا داریم میزنیم پول نیست ولی اون نفع شخصی است. همش میگیم کی؟, کی؟ کی؟ کی؟ اصلاً لاگ چیزی که من اصلا مثلا شخصی وجود نداشته. بحث این که آ یه گروهیه، حالا 20 نفر، ده نفر دارن یه زحمتی میکشن. دمشون گرد چرا ما به فکریم که همشون ده نفر رو بزنیم؟ چرا ما به اینیم که ما اون ده نفر رو بزنیم کنار خودمون بیایم؟ این چیزی که واقعاً من در حس می اینه. من ببخشید. دار... شاید من دارم اشتباه میکنم. نه نه من چالش نکردم نه،, نه. خب، نه چرا من بحثه که چرا آقای آه آهنگر من معذرت میخوام این چیزی که شما میگید مدام تعطیل بود تعطیل بود خب از دید من حالا من به آوانامم گفتم آوانامم گفت تعطیل بود ولی از دید من آرامیش طلاششو کرد سه چهار تا جلسه تو این یکی دو سال برگزار کرده بس تعطیل نبوده شاید کمکش نکردیم. تو گوری یه چیزی گفت. منی که میخوام کار کنم، من خودمم گفتم. خب من کامیونیتی رو نمی‌شناسم. نمیتونم برم با اسنپ با علی بابا، با دیوا، با زاویه بگم که آقا من فلانی هم از تهران اون میگه خب تو کی؟ خب بخوایم نخوایم بزرگترها باید یه سری کارها رو انجام بدن. اصلا این نمی‌دونم چرا داریم راجع بهش صحبت می‌کنی. این رأی‌گیری که شما می‌گیید نه، من حرفم اینا بایرم رأیگیری شب من برداش هم میشه بشه تحلیل تحلیلم اشتباه ولی ته تهش اینه که یه ادم بیان به صورت دوره‌ای یعنی کاملا دوره‌ای یه سری ادم بیان سر آدم ادمو بزنن کنار خودشون بیان ولی در حالی که لاگ بحثش این بود که همون اولش گفت دو ساعت پشت کامنت دورشیم بیان گپ بزنیم دیگه خب خب ببینید بحث اینه که خب ما یعنی ما که تهران لاگ منظور ما تهران لایک اینه که ها میگو پوشت رهاشو بیا خب اینه خب نرم خب نه, نه. شوش نه, نه میدونم باید. شما خب به حرف بس سر اینه خب اگه میخواد همه همه ی آدم ها رو تحت پوشش بدید خیلی گنده میشه درسل میشه من فقط یه مثال میزنم ببخشی یه مثال میزنم تمام میشه میره من دوتا مورد در تهران لایک میدونم شما خب هم خیلی میدونید میومد رئیس روما نه شرکت کرد اما بحث پارک بود که اومدن اون فرداشون فکر کنم پرونده تشکیل شه برای یه ده یعنی سر یه جلسات پارک برای یه دادن پرونده تشکیل شد مورد دوم خب مورد دوم که کشورمون رو قبول کنیم یه گروهی تشکیل بشه یه اساسنامه بیاد وسط یه حق رأی بیاد وسط مطمئن باشید مطمئن باشید توی این کشور بحث امنیتی میشه و برای اون آدم هایی که چه رعی میدن چه انتخاب میشن به مرور زمان مشکلات ایجاد میشه خود کامیونیتی هم قبول اصلا بحث این نیست که خودش نیاد یا خودش بیاد خب من بحثم این اینه این کار خب کامیونیوتی و این تهران لاگو مرور... بحثم این نیست که فردا مطمئن باشی به مرور زمان خراب میکنن ببینید خب بنت... آره یہ یہ سو میگم هر کسی که تصمیم بگه وضعیت لاگ علای اینه وضعیت خوبه برمت. آره خوبه برمت. خوبه تموم دیگه نمی‌شه از این بهتر خب این اصلا حد رسم میگه هدف بنه که یه سری می من میگم برگزار شدنش وقتی که همه بار رو دوشه این آقا بود چه به درد اون داد یه گفتن دیگه من گفتم من کامینیتر نمی‌شناسم خب یه دلیل دیگهشم اینه خیلی توضیح می الان دانشجوها دانشا بسی فکر میکنن همه به فکر مهاجرتن کسی به فکر نیست اصلا بیا تو کامیونیتی بیا تو جمعیت این مشکلش به من و آو نام و شما ربطی نداره به همین برگزار نمیشه من یادم یه جلسه آرامی تو گروه رای گیری گذاشتم اوایل اوا... اه... تابستون سال گذشته بود بعد افناپکس فرس خب جلسه بذاریم کی بیاد مکان نتونست یعنی هیچ کس نایمد کمک کنه چیه؟ فقط اینه که دانشتی آقا دانشجو ما الان جمعی که اینجا نشستم ما نایمد کمک کنیم چرا تو اون گروه مثلا شما نایمد کمک کنیم چرا من نایمدم کنیم من یه چیزی این وسط فقط بگم حالا شاید شما شو نبودی داخل این داستان تقریبا اون زمانی که لاگ داش برگزار میشد دو سه سال اخر فکر می کنم تک تک جلسه هاشو آره میدونم دو آره آره آره یعنی می اینجوری نیستش که بگه که, که تو چرا برگزار من نکردی آره اصلا شما نوی بود یعنی ماظره از شخص شما نبود آره میتون بپرسین آقا تو این همه دادی میگه خود چرا نمیاد برگزار کنه من الان بالاخره الان نه ماه تو ایران هم دیگه یه مدت نبودم الان که تو ایرانم بر... چرا من نمیادم برگزار کنم میگم اتفاقا این سوال خوبیه این سال نه فقط از لاگ از دور همه گناهام بعد بپرسین خب ما بپرسیم که من مگر تو اسلاید پرسن سوالی که پرسم من بهش فکر کرده بودم دو تا سوال پرسیدم یکی چرا کسی عضو فعال نمیشه؟ خب میشه خب مش دلایل مختلف آورد افراد دانشجو هستند اصلا افراد دلیلی نداره وقتی بهترین آموزشا رو میتونه اینترنتی پیدا کنه چرا باید بیاد توی کلاس بکنه خب یه دلیل مختلف میشه آورد دیگه میشه فهرست کرد. همه دلایلش دست ما نیست زمان عوض شد. شرایط تغییر کرده دستش اینا هم هستش میشه دموی اینا نشه صحبت کرد ابروغان قاتن کفایت کردن نداره یه بحثینه یه بحثشینه آقا چرا توی لاگ اگه لاگ دور همیگنو اگه کسی داشته فعالیت میکرده چرا ول کرده من من... ساید. ساید. ساید. چرا عادی اصلا نباید دنباله این باشیم من... که حتما آدما فعال باشن حتما بمونن حتما بیان یکی از کار برش پیش اومده رفته اگه من موندم نگاه اگه من دور همی نکون من اون موقعی که در سال 97 که من لاگ برگزار می‌کردم ما اصلا اون موقع دور همیگنو داشتیم از دور همگی نه از لاگ در واقع به تبیری فورک شده بود خب که بگه آقا الان صحبتی که دارم می کنم همون موقعش مخالف این ماجرا بودن ظاهرا من نمی کی ها نه, نه مخ... بچش لاگ اونجوری برگزار میشد چرا بچش دو... دور هم گره درست کردیم ببین من دور هم یکم یک تاریخچه بگم این بود که صحبت سره این بودش که ما تو چیز داریم ارائه داریم من صحبت این بود که آقا من ترجیح میدم که یه جایی برم که ارائه نداشته باشیم. قرار شد امید. که یه جلساتی بدون ارائه برگزار شد بشه درهمی گلو نه مخالفتی نبود. یعنی اصلا اون صحبتی هم که میکردیم مخالفت با این جلسات با کار نبود. بلاخره این شد که لاگ مسیرشو بره. لاگ مسیرشو بره. اوکی. شده. آه آره دیره دیره, دیره, دیره, دیره, دیره فق... آه آه آه آه من فقط یه چیزی رو بگم دلی. یه صحبتی راجع به این مجید که گفت یکی از مهمترین در این بوده که در واقع نفع شخصی توش نبوده یا پول نبوده من فکر میکنم که یکی مهمترین دلیل, دلیل درسته ها یعنی این بوده منطقه بیانش جور دیگه است مهمترین دلیلش این بوده که برگزاری لاک تا الان فقط درد سر داشته که و اگر یه کاری کنیم که این برگزاری لاک فقط درد سردار بمونه شاید از اون جهتی که تو چیزت هست راحت بشه الان مشکل سر این نیستش که یه سری آدم میخوام میان اینجا میگن آقا اینو بده من بر... تو برگزار نکن من برگزار کنم مشکل اینه که هیچکی برگزار نمیکنه اینجا در اوکی هم تو... هم هل... من صحبتی ندارم اگه کسی خب جمع نهایی دو هنین واقعا دیگه هر یه جلسه ای... بعدی قراره برگذار ها. شده هر زمانش جلسه بزرم بزرم بزرم بزرم یه برگذار باشه بله آقا زمانشون بخواه همین الان مشخص کنیم بذارم من حرفون بذارم بعد بیالا شاید یه قسمشو آنلاین بکنم. من نفهمیدم چی شد خدا اه... یکی این که یکی این که تا الان چیزی که من متوجه شدم توی یه رونده برگزاری خود جلس ها تو الان تغییری ما ایجاد نکردیم. درسته؟ یا نه میخوای یه تغییری توش بدید؟ من تغییری ندیدم توش. الان این جلسه نه. درسته؟ به همون روال قدیم ادامه بدیم؟ نهایتم اصلا دو تا ارائه نیم ساعت و یه ساعت هم نتورکین. این روال قدیمه خب... فعلا که تا زمانی که شما میخواید، آرد علال حساب علال حساب اون چیزی که داره انجام میشه همون روال قدیمه مونه تا به یه تفاهم دیگه ای برسیم درست میگم؟ چیزی دیگه هم میخواهید بهش اضافه بکنید احیانا یه پیشنادی که بودش این بود که مثلا دو هفته یه بار تهران لاک، تهران پاک لاک، پاک آگو بزر خودشو دستیم کرده توی شما ما داریم همه اینا رو انجام میدیم میتونیم یا این همچی چیزی هست بعد اون هم خب بچه خودمون هنیگه نه این ریوال رو بریم یعنی دو هفته لاگ مثلا لایک باشه پاک باشه اینطوری بنازرتون اوکیه ما راجع به لاگ اصلا تعصیم بگیرین دیگه پاگر رو اگر که اونقدر اینکه او. فاصله زمانیش اگر یک ماه یه بار باشه میتونه این اتفاق بیفته اگر دو هفته یک بار باشه نمیتونه البته دو هفته ماهی یه بار رو ما یه بار بزاره بزاره بس اگر تونستیم اسیم جو رو برای پاگ هم هر جلسه که برگزار شود خواهشانی بحثا رو تو جلسه نرو یعنی اون جلسه خیلی اشین میشه آره چون رو برس شد؟ جلسه که خیلی جلسه جلسه به رینک بوکس بین شما و شما آ این درایو کجا بود؟ می‌گفتید که اومده از این رو چی هر شو پردی؟ آها رو توی که داشتن میساختن؟ چیز دادن دارم؟ باکس شریف باکس شریف این حداقل الان برای کسایی اولی جلسه نمی‌دونم 100 تومان بده. که بحث جلساتش بود گفت کش که الهقوانی مشکل داشت برای ایمان ادعا بودش. تاثیرش مشای شده. حداقل دیگه اینکه پروژه شده. درمو پر جلسه برگوزاران از سای این در خود هم کم کم ترس و, و، به از این جهت که خوبه خیلی بارد این جلسه برگوز همین جا در باقا آزاد آخر جلسه ایمان کشینه نشده و یه مورد بردیه که من یه سالی برم کش اومده همان شما میگید که یه سری میاد که ها در فوقی باشه یه سری ام اونم اینکه بناواد یه جوری که آزاد بشه تا به چه صورت نه من ترجمه نمی‌کنم. من به نظر واسه این ماشین‌هایی که خانونا باشه. که سایه تو هیچ کس نمیتونه اعتراض کنه. فقط کسی جلسه برگزار میکنه هیچ حقی نداره که چه جلوی بگی نه آنلاین ندارم. خب نه آقا من میگم چون دیگه اصلا نبردم رو یه بحثیشو کنم خداو الله جلسات اصلا من نیاز احساس اساسیه که یاد بگیرم تا چراش من خاطردو یادم میشه که این ذهنیات که هر تو میشه که بشکنه خب من یکی نه من یه بار جلسه اون طرف برج میلاد من اعلالم کردم اون متنی خب چون کلی داد گفتن یکی اگر آدم می‌دونی به فرجوردت می چش کنید شما اصلا هر روز اگر آدم نفر 200 نفر طرح میشن مختلف چش کنید چوری این بشتر بشتر بشتر. این بله. این تو این همه جلسه بیشتر بهتر من سینچزم نیست من سین رو دوو بوت یه که توی جمع نیست تا وسط آدمایی که میخواد این نظریه رو باعث ترس داره خیلی اگه برده راست بهش چه اتفاقی میفته خب مورد بعدی که میخواستم با چیز کنم ببندمش این که رواله خیلی قدیمی ترش این بوده که ما سشنبه تا هشت برگزار میکردیم آیا عوضش باید بکنیم یا نه همین سشنبه 6.8 مثلا اوکیه من اوکی. خب اخر مثلا مثال بخوام بزن مثلا اگر مکانش وایس شریف باشه دانیال بخواد از ترامپاس بردار پاش بیاد وسط هفته از سر کارو طول میکشه ساعت نکردن تا کجا داشتم سر این سالت. تو پنج بیا اولیش نگردن اگه میکرداد مشکل این داره رو یا باشه بنظر ایت خیلی شروع میشه. آره، برایتش هم هست. نظر هم وسط هفته خیلی منطقی تره. شما قراره هفته مامونا حالا با خانواده یا دوستا اینا مامونا یه قراری میذارم وسط هفته لذت ببریم. شاید باشه ولی شخصا خوشترم. فعلا حالا اینا میمیم جورا بعد اگه خواستیم اول داش بکنیم. بعدش سه شنبه تو شش شنبه من اینکه جا مشکل داشته باشیم. خب و الان بیست شنبه تیره. 11 مرداد خوبه دوباره جمع بشیم یا نه شمه. هفته یه دوره میکنه تو تعطیلات بزا بزا بزا تعطیلات هفته یه تعطیلات داریم و خیمه ها هم شروعه تا اسوها شروع. این 11 ام سه‌شنبه است نه چهارشنبه است همون 11 خوب چی آنلاین شده برگزار سخت بحث گردنش ببین مثلا من نمیخوام تو این صحبت یک مصطفا صورتش نمیشد من هم باز نمیتونیم باز نمیتونیم دانیا نمیتونیم یان جیگره کنم مشکلش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> علاوه بر از این مشکلات هم بیازمون کنسل تا سوال. من آقا من هستم یه دفعه بهنام تفرشی می‌گم بگو اینکه من نسبت به داره بشه چیزو به سمت ببره. کون درو. آقا دو تایی بشید رو جلسه دو نفره با هم خب ها که حضوری اوکی یه یازدهی مرداد همینجا برید چون پاکم آزاد گرفته میشه بخادر مشین شخصی بازگید بایییم مشین شخصی چون مطبعت بود مرداد همیتونه مید نه من ایز من نمیتونه نه بس من نظرسنجی بخواهم برای یه همچین بحثت و حساسیت بره بودنش آدم یه نقل شرم و حیات ایشتر به خرج یه چونکه کنترل <سؤال> یازده مرداد خوبه یا نه؟ یه نظر خوبه که ایشون رفتن گفتن که یه داره امروز بیاد <سؤال> با روزش میاد. با, واقع با واقع تاریخش <سؤال> هر کاری کنیم یکی یه روز آقا یازده مرداد دوره هم بذاریم 6 یه شیشونیم بیاد یا نه؟ بچه هم یه سالان کنفرنس شرکتشون هم میتونیم بریم اینجا یا سالن کنفرانس؟ اینجا من محافظترم چون پیاده دو دقیقه هستم اوکی اینجا نظر شما با اینجا سنو نظرتون با همینجا سوره روم میدم خوراکی بیارید به خراکی اینجا من اومده به اینجا به بندخونه به من چیز کردیم با اومده به یه چیز زده که ساعت فلان نگه زمان شلوقی، فقط زمان شلوقی باشه، که با چیز, با چیز ساعت چیزی؟ برای 25 نفر ما ایم؟ نه اسم هستش. نه چیز نه شما نه <تصحیح> <تصحیح> اوکی خب بعد مورد بعدی این که روالم که روال برنامه ای خواهی اضافه کنی؟ کوح نمیخوای ببری بچه ها رو؟ یه حرکتی میخوای انجام بدی؟ میتونه انجام بدی؟ هر کسی شما انجام بده انجام بده اوکی کسی چیزی یه می‌خواد بگه؟ آقا یه سیگه‌ره یه سییت الان داره رامین داره جا همایی میکنه. بچه‌ای که جدید اضافه شدن به قصد کمک کردن چجوری اینوالو کنیم توی قضیه؟ اینو کجا جدید جای رو نفر، 6 نفر ما اینجا جدید داریم. 6 هفت نفر جدید داریم. چجوری درگیرشون کنیم؟ چه کمکی می‌تونیم بکنیم؟ 4 نفر است. شما چهار میشود اینجا. تا نفر میشه بیاد تو برنامه در اسلام در نایبور اصلا هم بیشتر نیست ببین جا رو رامین داره مکاتبه میکنه جا من جا با صحبت این یه نقد داره یه نقد داره تو <تص> جیبش یه جای نقد داره تو جیبش کجا؟ یکی، ولی جفتش یعنی، الله امکانات و تحریزات یکی، مثلا سرمایه جفتش یکیه؟ همه شما به مال بگو؟ اونو اونو او okay. که شما باهاشون داره این اونجا, اونجا هم, سار داره هم شما سه شب دهم میتونید رزرو بکنید دقیقاً سه شب دهم مرداد برای خودمون یا نیست یا آزامون ما خودمونم نیستیم میخوایید بریم محمده این هفته محمده نمیدیم در جنش نیست جلتر بعدا نوامید ولی خب موضوع موضوعی اصلا نفید یا آزامون قد میام که خب پس هستم چارشنبره سشنبرم هستیم سشنبرم آره لایک باش نمیدیم ایش کنیم لایک نه این دوباره برد شدیش آره اونه که نمیان اغطا یه لایه همون جلسه بعد یه لایه من نیمه منو ببخشید من هستم فیزیکی نیستم بسه آقا بشین بریم دعوان آقا بشین بشین آقا بشین بشین بشین نه نه مردم هم خانواده یه بیشترم بی نه معمول همه کجا بود دو ها چرا خیلی قرآشم آب تمامه کسی کسی کار نمی اپلیکیشنش رو کار نمی کند تحصیب ای ها، آقا بریم در شیش شما شو. سشنبه در مرداد و برای جای لاک شیش شما سشنبه در مرداد برای جای لاک شیش تو هم داری تو گروه چیز میادیه؟ دیگه یک یه نیست تو گروه برگزاری جنازه الان میگم که 11 ها همینجا همونه که اینجا چیزی ایجسی یک جریانه انگلاب که می اونم بعد از اون جلسه اون جلسه برای برگذاری آره باید نهایی بشه اتره رو انگلاب؟ یه این دیگه فقط بهنام من بعد درم سونه بزنم باشه باشه